فصل چهارم و بابل درهای خود را به روی او گشود در سال 556 همان سالی که شاه بابل نبونید بر تخت سلطنت جلوس کرد با استفاده از جنگ میان ماتها و پارسها زادگاه خود حرران را اشغال کرد تا در آنجا به فرمان خدایان معبد اهل هول را سازی کند رویدادنامه بابل گزارش می‌دهد در سالی که به سلطنت رسیدم این خواب را دیدم مردوک خدای بزرگ و سین نور زمین و آسمان با هم بر من ظاهر شدند و مردوک چنین گفت نبونید ای شاه بابل از پا و های خود را گردآور چوب ببر اهل هول را دوباره بساز سین خدای بزرگ را در خانه مشروع خودش قرارده پس از سقوط نینوا وقتی که آخرین شاه آشور، آشوربانی پال دوم در جنگی نومیدانه با مادها، سکاها و بابلیان به معبد سین پناه برد، آنجا به کلی ویران شد و دیگر هیچگاه بازسازی نشد و پرستندگان سین احساس نومیدی شدیدی میکردند. کلدانیان پس از تصرف حرران در 550 و سه، بسیج هزاران کارگر و آغاز کارهای بازسازی معبد را نوعی مبارزه طلبی با مادها محسوب می کردند. اما شاه آنشان این کار را حرکتی شورشی با توجه به خلع قدرت در هر ران تعبیر کرد و چندان نگران نشد بلکه برعکس چون این کار باعث تضعیف آستیاگ شاه ماد می شد می کوروش بابل را در این کار تشویق هم کرده بود. از سوی دیگر این اتحاد غیر مستقیم و زمینی دو شاه به نبونید امکان داد از همان آغاز سلطنت به تصرف محلهای استحکاماتی متعدد در سوریه از جمله دژ حمات در پای کوه هرمون بپردازد. در سال 551 ساختمان اهل پایان یافت و مجسمه های خدایان سین، نینگال، نسکو و سادارنونا با تشریفات رسمی و شکوهمندی از بابل به هرران منتقل شدند. نبونید در مقابل قدرت فضاینده پارسها قبل از هر چیز نگران حفظ معبد تازه باز سازی شده بود. از این رو در جنگ کرزوس علیه شاه آنشان جانب کرزوس را گرفت. البته او در جنگ لیدی چندان نقشی نداشت اما کوروش به دلیل اینکه به اعتماد او خیانت شده بود، از شاه بابل احساس انزجار می کرد. از آن پس امپراتوری کوروش از مصب رود میاندر تا مصب رود سند گسترده بود که فاصله ای نزدیک به پنج هزار کیلومتر میشد. اکنون غلبه بر نبونید چه اشکالی داشت؟ مگر او در گذشته نیرومندترین قدرت اقتصادی منطقه یعنی لیدی را شکست نداده بود؟ مگر سارد متحدانی نظیر اسپارت و مصر نداشت در حالی که اکنون بابل به کلی تنها به نظر می رسید. بابل یکی از مراکز بزرگ تمدن بود. پایتخت نبونید، وارث فرهنگ های سومر و اکد هدف امده حقامنشیان محسوب می شود. نبونید پرستنده خدای ماه نبونید، مرد جوانی که در پی یک کودتا به قدرت رسیده بود، چندان دوچار آرمانگرایی جاهلانه نسبت به واقعیت امور نبود. او هم دسیس بازی بلد بود و هم چگونگی نشان دادن اقتدار خود را روحیه تصمیمگیری و دورویی نیز داشت. او در سال 555 با جنگ در تمام سوریه و فلسطین تا کشور ادوم درک استراتژیک خود را نشان داده بود. تازه از این لشگرکششی بازگشته بود که هرران را اشغال کرد و مدرک تازهی برای اثبات مهارت نظامی خود به نمایش گذاشت. نبونید در دربار نبو کدنسر بزرگ شده و پرورش یافته بود و جوانی شایسته و در خورره اعتماد شناخته میشد. در واقع او نیز مانند کورش آرمانهای سیاسی و مذهبی داشت. پدرش، که آرامی تبار و فرماندار شهر هران بود، اصول مدیریت و حکومت را به او آموخته بود. لقب او نوبولاد سوئقبی به معنای خدای نبو فرمان حیاتش را صادر کرده بود و در سالنامه های رسمی از او با عنوان شاهزاده کامل، شاهزاده خردمند و خداترس یاد شده بود. مادرش عددگو اوپی کمی پس از تولد او کاهنه بزرگ سین در معبد اهل شد که به معنای سرای شادمانی است. نبونید که نامش به معنای ستایش بر خدای نبو است نگرش خاصی در مورد سرنوشت بابل داشت. او میخواست به قبایل آرامی برتری بخشد تا به قلمرو بابل پویایی تازهی بدهد و بابل را تبدیل به پایتخت امپراتوری الهی کند. اما روحانیت خدای مردوک به هیچ وجه برتری یک خدای درجه دوم مانند سین را تحمل نمیکرد و عقیده داشت خدای مردوک باید شاه خدایان، خدای خدایان، شاه آسمان و زمین، ارباب، امیر خدایانی که بدون او هیچ کاری انجام شدنی نبود باقی بماند. نفوزی که کاهنه عدت گوپی بر پسر شاه اعمال میکرد چنان نبود که او را محتاط بار بیاورد. او طی گذشت سالها معبد ویران را ترک نکرده، پیوسته در دعاهای خود خواهان بازگشت خدای خیش بود. او با پرستش و ستایش شاه آشوربانی پال متوفا زندگی می کرد، کسی که همسرش را حاکم حران کرده بود. او همچنین می دانست که اثر هدون سین خدای ماه را برتر می شمرد و عمیقا با آن پیوند داشت. مگر سارگون و اثرحدون نبودند که تأکید کرده بودند سین باعث استمرار سلطنت آنهاست. و مگر آشوربانیپال پال پسرش را سین شاریسکون ننامیده بود که به معنای سین شاه گزین بود. کاهن شکی نداشت که پسرش جانشین بر حق آشور پال است و بر تمام امپراتوری آشور بابل حکومت خواهد کرد. پس نبونید میتوانست به سنت دگانهی به بالد. نخوست سنت سلطنتی در اثر اعتماد شاه به پدرش و سپس سنت مذهبی به دلیل زهد مادرش نسبت به خدای سین و به یاد میآورد که اثر هدون و آشوربانیپال پال هر دو در هرران شهر خدای ماه تاجگذاری کرده بودند. نبونید به برکت ای که سرچشمه اصلیش روحانیت خدای سین بود در بابل شاه شده بود با آگاهی از مشروعیت و برحق بودن خیش به رقم توطعی قتل پسر نریگلیو در فکر سرنوشت بابل بود و میخواست رسالت خود را به سود خدای ماه انجام دهد با وجود این خدای مردو که بیرقیب بر بابل حکومت میکرد و روحانیت آن نفوذ گستردهای در آنجا داشت به علاوه، پادشاه کلدانی قدرت خود را از این خدا به آورده بود. البته، سین بزرگ هواداران و مریدان متعدد و نیرومندی در بابل داشت، اما نبونید چگونه میتوانست در برتری بخشیدن به خدای خود در برابر خدای مردوک موفق شود. بیشتر روحانیان بابل مخالف بازسازی معبد هول بودند. در اینجا چالشی وجود داشت که نبونید میخواست از آن پیروز بیرون بیاید. بنابر این تصمیم گرفت بابل را ترک کند و با این کار مانع برگزاری مراسم مذهبی به افتخار خدای مردوک شود او قبلا پسرش بلشسر را به هران هر احضار کرد و به او معموریت داد که در سایه حمایت سین هنگام غیبت او امور سلطنت را اداره کند سپس بدون آنکه به پایتخت برگردد راه غرب یعنی راه بیابان عربستان را در پیش گرفت احالی بابل در معابد، کاخها و بازار از این تصمیم شاه با تعجب و نگرانی مطلع شدند. در ظاهر آرامش بر منطقه حاکم بود. شورش کروش علیه مادها باعث حراس از خطر خاصی نشده بود، با آنکه همه از علاقه شاه به مراقبه در تنهایی پرستش گذشته و عشق به کویر که خواستگاه و زادگاه خانوادهش محسوب می آگاه بودند این شبه کنارگیری موقت از سلطنت از آن رو باعث ناراحتی بود که بلشسر نمی توانست وظایف مذهبی را انجام دهد چون آنها از وظایف امتیازات شخص شاه به شمار میرفت. شاه بابل در تما واهی واقع در نیمه راه پایتخت و شهر منفیس در قلب منطقه‌ای که فقط کاروان‌های بدویان از آنجا عبور می‌کرد اقامت گزید. او از هدف مشخصی پیروی می‌کرد: حیات بخشیدن دوباره به این سومین مرکز خدای ماه. پس از اور در کلده که شاه در آنجا دختر خود را با عنوان کاهنه مستقر کرده بود و هر در آشور، تما عظمتی را که شایسته خدای سین بود باز میافت. نبونید میخواست این واه و آبادی کویری ساده را تبدیل به مرکز تمدن خدای خرد کند، خدایی که زمان با آن اندازه گیری می و رمز و نشانه آن به شکل ستاره فروزان شب، نمایانگر بینظمی حرکت آن و ظهور آن نشانه نسبیت یقین انسانی بود. با وجود این بعضی ها در بابل عظیمت و سپس قیبت طولانی نبونید را به بیماری تعبیر کردند. می گفتند شاه از نظر روحی خسته شده است و احتیاج به آرامش کویری دارد. بعضی دیگر عقیده داشتند خشکی اقلیم کویر برای بیماری پوستی که شاه به آن مبتلا شده مفید است. آیا نبونید شصت ساله علاقه به قدرت و سلطنت را همراه با دسیسه ها و رسفایی هایش از دست نداده بود؟ به تحریک روحانیان مردوک بسیاری از مردم نبونید را شاه دیوانه می این مطلب را نیز، به یاد مردم می آوردند که نبو در پایان عمر پیش بینی کرده بود آخرین شاه بابل برای اتباعش بدبختی به بار می آورد و برای او و مردمش بهتر است که او راه دیگری دور از شهرها و انسانها در پیش گیرد حتی بعضیها در کلده به این اندیشه افتاده بودند که مبادا نبونید آخرین پادشاه بابل باشد و از دیگر رفتار نبونید را با دلایل اقتصادی توجیه می کردند. راه زنان و قارتگران مرکز شبه جزیره عربستان به کاروانهایی که از مصر ثروتمند به مقصد آشور، بابل و لیدی یا ماد می آمدند، حمله می کردند. این امر برای کلده که به واردات از مصر و صادرات تولیدات خود نیاز داشت، خطری جدی محسوب می شد. شاه بابل، با حضور در قلب آبادی اصلی کویر عربستان راه زنان را نومید کرده بود به علاوه از نظر استراتژیکی تبدیل تما به دژی مستحکم پیوندهای میان بابل و مصر را تأمین می کرد و بدین ترتیب ریسمانی ایمن میان دو کشور پدید میآورد البته تهدید پارس هنوز وجود نداشت و این تصور که شاه کلده میخواهد با نزدیک شدن به فرعون خود را علیه خطر شرق تجهیز کند، دشوار بود. اما بدون شک او از همکنون فهمیده بود که امپراتوری ماد پارس رو به پیشرفت است و سرانجام به مانعی در راه تجارت بابلیان با خاور دور تبدیل می شود. بلاخره نبونید در عین حال طالب اتحاد با اعراب بیابانی بود که در تاریخ منطقه تا حدی به دست فراموشی سپرده شده بودند و میخواست با این اتحاد مواضع دفاعی خود را در برابر آریایی های کوهی تقویت کند. بابل دلایل خوبی برای ملاقات و نزدیکی با چادرنشینان عربستان داشت. به سنت خانوادگی با این جماعات کوچ رو احساس نزدیکی میکرد. در قرن هشتم، در زمان حکومت تیگلت پیلستر سوم قبایل عرب میان رودهای دجله و فرات و به طور کلی در منطقه هرران مستقر شده و در آنجا با تعدیل اعتقادات خود با مردم جوش خورده بودند. احتمالاً پرستش الهه ماه تبدیل به یک نقطه وحدت و تقارب میان آشوریان و عرب شده بود. مهاجرت قبایل بیابان عربستان، به سوی بین نهرین حاصل فتح هجاز بود منطقه‌ای از شبه جزیره عربستان در کنار ساحل دریای سرخ که تیکلاد پیلسر در سال 729 کمی قبل از آنکه شاه نینوا شود آن را فتح کرد تجدید فعالیت اقتصادی که از پی این واقعه صورت گرفت به اعراب امکان داد به برکت استفاده از زبان آرامی که بیش از پیش رواج می‌یافت و به زبان آنها بسیار نزدیک بود پیوندهای پایداری با آشوریان برقرار کنند با وجود این یک پارچگی چند قبیله عرب در مجموعه آشوری بابلی را نمی‌توان با نفوذ شدید شاخه دیگر سامی یعنی آرامیان مقایسه کرد این آرامیان که مرگ نمی شناسند. قبایل آرامی بیگمان صحرای سوریه را ترجیح میدادند. دادند بنابرای روایت ابری در آغاز هزاره دوم بین النهرین اولیا محل اقامت ممتاز آنها بوده است یعقوب به کشور آرام رفته و در آنجا با راحیل دختر دوم لابان ملاقات کرده بود بنابرای نوشته کتاب مقدس، این خیشاوندی حتی قبل از سفر یعقوب بود، چون آرام و ابر از جمله فرزندان سام پسر نوح بودند و نام سامیان نیز از همین جا آمده است. پس آرامیان قدیمی ترین اقوام منطقه بودند، با این حال شهرت بدی داشتند، کتیبه ای از قرن چهاردهم به بابلیان توصیه می که به آنها اعتماد نکنند زیرا جاده ها را ناامن و با قبایل هیتی رابطه برقرار کردند. اما آشوریان در سدت برآمدند این مردم را که صد راه آنها به سوی غرب بودند از میان بردارند به خصوص هنگامی که مانند سال 1200 ساکنان منطقه خلیج با استفاده از فروپاشی امپراتوری هیتی به سوی شمال رفتند تا در صحرای سوریه پراکنده شوند اما آرامیان که میزان افزایش جمعیتشان زیاد بود اجازه ندادند آنها را از بین ببرند رفته رفته این قوم چادرنشین و کوچ رو در دشتهای واقع در خمیدگی بزرگ رود فراد در اطراف شهر کرکمیش مستقر شدند. آرامیان متمدن شدند و به کشاورزی و تجارت پرداختند. شاه آشور تیگلت پیلسر اول در پایان سلطنت خود در حدود سال 1100 گزارش می دهد که 28 بار علیه آن ها کرده است یعنی به طور متوسط سالی یک بار در طول سلطنت خود آرامیان که از این حملات جان سالم به در برده بودند، سازمان یافتند، دولتهای کوچکی تشکیل دادند، شاهانی برای خود برگزیدند و مقررات یک جامعه مدنی را تدوین کردند. با این همه، آنها نتوانستند دولتهای قبیله‌ای را که در محاصری آشوری بابلیان بودند، در واحدی سیاسی متحد کنند تا بتوانند در مقابل حملات خارجی از خود دفاع کنند، پنج قرن بعد یونانیان مستقر در سواحل آسیای صغیر نیز مرتکب همین خطا شدند. بابل نیز نتایج این حمله‌های بظاهر پایان را تحمل کرد. اما بابلیان برخلاف آشوریان ضمن مقاومت در برابر حملات عملیات جنگی بزرگی علیه آرامیان انجام ندادند. سنت هزارهی به بابل امکان داد در مقابل حجوم های این چادرنشینان مقاومت کند و به استفاده از ظرفیت های سازگاری و صفات تجارتی پسران آرام بپردازد. در شمال مسئله فرق می کرد. آرامیان با شرکت در انهدام آخرین دولت هیتی خود را در مقابل قلمرو رو اسرائیل یافتند. ابریان، برای مبارزه با حمله های چادر نشینان سوریه برای خودشاه برگزیدند. شاول و داوود به جنگ های دایمی علیه این جنگ جویان بیشمار پرداختند. اسرائیلیان توانستند چند دولت کوچک آرامی را نابود کنند، اما به زودی ناچار به مقابله با حدد اذر پادشاه صوبه شدند که توانسته بود برادران بین النهرینی خیش را علیه اسرائیل بسیج کند، برای نخستین بار پسران آرام جنوبی با پسران شمالی برای نبردی مشترک متحد شدند. شاه سوبه در رؤیای ایجاد فدراسیون بزرگی از آرامیان از فرات تا اردن بود، اما پادشاه اسرائیل به او فرصت نداد نقشش را اجرا کند. داوود از اردن عبور کرد و نبرد شدیدی در گرفت که در آن آرامیان چهل هزار پیاده و هفتصد عرابه جنگی خود را از دست دادند. در کتاب مقدس آمده است که تمام شاهان دست نشانده هدد اذر با اسرائیل صلح کردند و منقاد آن شدند. داوود در یک لشکر کشی دیگر شکست جدیدی بر پادشاه سوبه وارد آورد. و داوود، هزار و هفت سوار و بیست هزار پیاده از او گرفت و داوود جمیع از پای را پی کرد اما از آنها برای صد عرابه نگاه داشت به علاوه گردن بندهای تلای شاه آرام را گرفت دمشق را اشغال و در آنجا پادگان مستقر کرد و خراج کلانی ستاند سرانجام آرامیان این قوم سازمان یافته مغلوب شدند اما اسرائیل به تدریج نیروی خود را از دست داد در حالی که آشور پیروزمندانه به پا خواست و از آن پس آرامیان مجبور شدند درباره حق زندگی در منطقه با قومی فاتح به بحث بنشینند. حدود سال 840 مردی به نام هزائل حاکم دمشق شد که نیز میخواست دولت فدرال آرامی تشکیل دهد. او موفق شد اسرائیل را شکست دهد. ولی خود نیز زیر ضربات شلمنسر از پای درآمد با این حال دولت‌های کوچک دیگری در شمال سوریه و کلیکی جانشین یکدیگر شدند سرانجام زیر ضربات تیگلت پیلسر سوم همان کسی که هجاز را فتح کرد و ملکه پرقدرت آنجا سامیس را مطیع خود کرد آرامیان از هم فرو پاشیدند کمی بعد در سال 722 نوبت دولت اسرائیل بود که زیر زربات شلمنسر دیگری یعنی شلمنسر پنجم از پای درآید. آید. اکنون صلح آشوری حاکم منطقه بود. مصریان در رافیا منکوب شده بودند حالان که در 717 آشوریان کرکمیش را که در دست هیتی ها بود به طور قطعی اشغال کردند. آیا از بین بردن دولتهای آرام به معنای نابودی پسران آرام بود؟ در زمان سارگون دوم حدود سال 715 قبایل آرامی در تمام جهات به کوشش پرداختند و خطر بزرگتری برای دولتهای منطقه ایجاد کردند. در بابل، عوامل آرامی از قاسبی به نام مردوک بلدن که علیه نینوا شورش کرده بود پشتیبانی می کردند. این شورشی تاج بر سرگذاشت و سارگون را واداشت به او اعلان جنگ دهد. قاسب سپس مجبور شد به سوی جنوب بگریزد. اما پس از مرگ شاه آشور در 705 مردوک بلدن از ها بیرون آمد و دوباره قدرت را به دست گرفت. سنخاری پسر سارگون به نوبه خود ناچار شد شورشیان را سرکوب کند. او دویست و هشت هزار نفر از آنها را تبعید کرد و گفت این آرامیان یاقی مرگ نمیشناسند. سنخاریب درباره این مردمان گم شده گریز پا و دزد به نسلهای آینده هشدار میداد. با وجود این آرامیان که به رقم ضربات بیشمار و با سقوط نینوا در هر هرگونه وجود سیاسی واقعی را از دست داده بودند، باز در بطن امپراتوری جدید کلده نیروی قابل توجهی تشکیل دادند. در ظاهر از آن پس نیروی حیاتی آنها از جنگ و سلط به فعالیتهای فرهنگی جلب شده بود. فقط نیروی اندیشه و باروری سنتهایشان زامن بقای آنها بود. ضمن آنکه رفته رفته زبان ایشان که شاهزادگان، بازرگانان، روحانیان و کاهنان به آن تکلم می‌کردند. در میان عموم مردم نیز رواج می آفت. خدایان ایشان به ویژه حدد در سراسر بین و نهرین پذیرفته شد. حدد خدای طوفان، خدای آسمان، خدای آسمان در حال جنبش و خدای آسمانی است که با رعد و برق خود را می نمایاند. همسر این خدا به نام آتار الهی باروری و مشابه ایشتار آشوریان است. پس حدد بر شمش یعنی خورشید و سین یعنی ماه حاکم است. نبونید با آباد کردن تما، آرزو و انتظار داشت این قوم که تاریخ و اعتقادات آنها را می شناخت، قدرت خود را باز یابد. قدرت نمایی نبونید بابل با مشکلات بیشماری روبرو بود. کم بود مواد خوراکی؟ جنبش‌های های عقیدتی کما مهار نشدنی به سود کورش که آوازه بخشندگی و بزرگواری او رفته رفته تمام خاور نزدیک را دربر می گرفت و احساس تلخ مؤمنان مردوک که نمی جشن سال نوی خود آکیتو را که مهمترین جشن آنها در زندگی اجتماعی بود برگزار کنند. سالها پی در پی میگذشت بی آنکه بابلیان بتوانند شعائر مربوط به جلب حمایت خدایان خود را انجام دهند ناراحتی به بحران تبدیل میشد نبونید به نوبه خود این آین را نادیده میگرفت بگذارید برای آنکه آنچه میخواهم و آرزو دارم انجام دهم به انجام برسانم از این جشن مهم چشم بپوشم بگذارید جشن سال نو را کنار گذاریم او میخواست تما را به پایتختی همتراز با بابل تبدیل کند. شروع به ساختن کاخی بسیار مجلل کرد که چندان با کویر که محل عبور چادر نشینان بود هماهنگی نداشت و از بابلیان خواست مزاحمانها نشوند. تما نسبت به دو مرکز دیگر پرستش خدای ماه این امتیاز را داشت که فقط چند روز با قله مشهور بدر کامل ماه که مورد احترام اقوام عرب بود فاصله داشت. بنابرای روایت تورات، ابریان هنگام خروج از خانه بردگی مصر و پس از چهل سال سرگردانی در بیابان قانون خود را از پیامبرشان موسا در پای کوه سینا که وقف خدای سین بود دریافت کرده بودند. البته اسرائیلیان بعدی از خدای بزرگ خود که این محل را به آنها آشکار کرده بود روبر نگرداندند اما به یاد می آوردند که ابراهیم در شهر اور به دنیا آمده بود که آن هم وقف خدای سین بود ابریان نمی توانستند خود را با خدایی که مورد پرستش نبونید بود حتی به طور نمادین سازگار کنند با این حال عادت شده بود که اقوام مهاجر به خدایان محلی احترام بگذارند بدین ترتیب مریدان موسا باید با پذیرش تورا در مقدسترین محل به دیده پرستندگان سین نسبت به اقوام ساکن در منطقه موقعیت مناسبی میافتند ضمن که اعلام میکردند خدایان دیگری جز آنکه به مشیت او رفتار میکنند وجود ندارد قله بدر کامل ماه قلی آتش فشانی بود ابریان با ستون‌های از آتش و دود که در کویر راهنمای آنها به سوی محل مقدس بود جذب این کوه شده بودند و خداوند در روز پیشاپیش قوم در ستون ابر می‌رفت تا راه را به ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش تا ایشان را روشنایی بخشد و روز و شب راه بروند آنها تا مدت‌های مدید در نیایش‌های خود ستاره ماه را به یاد می‌آوردند که چگونه هنگام عبور از کویر با او زیسته بودند و او راهنمای ایشان بود. مزامیر داوود یادآور پیروی ماه از مشیت الهی است. هللویا. خداوند را از آسمان تسبیح بخوانید. در اعلا الیین او را تسبیح بخوانید. ای همه فرشتگانش او را تسبیح بخوانید ای همه لشکرهای او او را تسبیح بخوانید ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید ای همه ستارگان نور او را تسبیح بخوانید ای فلک الافلاک او را تسبیح بخوانید و ای آبهایی که فوق آسمانید نام خداوند را تسبیح بخوانید زیرا که او امر فرموده پس آفریده شدند و آنها را پایدار نمود تا ابدال آباد و قانونی قرار داد که از آن در نگذرند خداوند را از زمین تسبیح بخوانید ای نهنگان و جمیع لجها ای آتش و تگرگ و برف و مه و باد تند که فرمان او را به جام آورید. ای ها و تمام تلها و درختان میوهدار و همه های آزاد ای وحوش و جمیع بهایم و حشرات و مرغان بالدار ای پادشاهان زمین و جمیع امت‌ها و سروران و همه داوران جهان ای جوانان و دوشیزگان و پیران و اطفال نام خداوند را تسبیح بخوانید زیرا نام او تنها متعال است و جلال او فوق زمین و آسمان در تما، مهراب سین بر پشته ای از سنگ بنا شده بود که بر روی آن سر گاوی قرار داشت. در زمانهای دوردست، گاو نماد خدای ماه بود. در دوره نبونید، هلال تصویری سازگار تر با ظاهر ستاره ماه داشت. این دو نماد با هم مقایر نبودند. مگر شاخهای گاو یادآور هلال نیست؟ خدا ابریان هنگامی که سرورشان الواه قانون را در قلی کوه سینا دریافت می کرد برای تسکین استراب خود به ساختن گوسالی پرداخته بودند که شاخهایی به شکل هلال داشت. در واقع گوسالی از طلا که نماد دوگانه ماه محسوب می شد و شروع به پرستش آن کردند. از نظر نبونید قرابت میان سین و کویر عربستان آشکار و در عین حال الزامی بود. او متقاعد شده بود که بدبختی های بابل معلول ترک آین سین در هران بود و اعتقاد داشت که یگان راه برای حفظ امپراتوری با سازی معابد مقوفه خدای ما هست. او به علت پیوندی که میان زندگی مردم و آین سین برقرار می کرد چونین می اندیشید که شاهان باید تابع خدایانی باشند که به آنها مشروعیت بخشیدند. شاهان آشور چنین بودند. خدا آشوربانیپال پال هنگام گرامی داشت پیروزی اعلام کرده بود از یاری خدایان بزرگ و سین که در هر ران قرار دارد سپاسگزارم و نیز همان سین که پادشاهی مرا آفرید و نام مرا بر زبان آورد و شاهان بابل و نیز سومر و عکد چنان که متأخرترین آنها در درجه اول نسر مگر نه اینکه سین را ستایش و پرستش کرده و همواره معابدی به احترام او ساخته بودند یا به بازسازی معابد او پرداخته بودند که در اثر گذشت زمان یا جنون انسانها ویران شده بود پس نوونید اعتقاد داشت که تبار دوگانی شاهان آشور و شاهان بابل در وجود شخص او تجلی یافته و او تحت عنایت سین یگان پادشاه برحق میان درود بزرگ است بلند او مقابل بلند فروازی کوروش قرار داشت. در حالی که شهریار جدید پارسیان برای یک خاورمیانه متحد زیر قدرت خود اولویت قائل بود، شاه بابل بدون قید و شرد به درک مذهبی از جهان آویخته بود. در ذهن او تاریخ سلسله‌های های و سومر به آغاز اصر خدای ماه باز می گشت. به نظر نبونید نینوا و بابل آشور و کشور بابل نهادهای واحد و اعتقادات یگانهای داشتند به رغم جنگها و شورشهایی که طی قرنها آنها را در مقابل یکدیگر قرار داده بود آنها با تبار و آیین مشترک خدای ماه متحد بودند پس همه مؤمنان باید با نیرو و حضور خیش در سراسر امپراتوری راه رسالت او را در استقرار مجدد مذهب ما هموار کنند اما آیا نبونید درباره ماهیت قدرت سلطنتی در دو کشور مرتکب اشتباهی بنیادی نشده بود در آشور شاه قبل از هر چیز کاهن بزرگ خدای آشور محسوب میشد او باید هر روز خود به قربانی کردن می‌پرداخت و قدرتش هر ساله تجدید میشد. برای نشان دادن خواستگاه یگانه اقتدار الهی و اقتدار شاه در مراسم تاجگذاری سالانه او اعلام میشد آشور شاه است. پزشکان کاهنان و قیبگویان مراقبت از تندرستی شاه را بر عهده داشتند. اگر قیبگویی می گفت که شاه در خطر است، مرد بی اهمیت بی را به صورت تصنعی تاجگذاری می کردند سپس او را میکشتند تا خطر را از جان شاه دور گردانند و او در واقع بلا گردان شاه میشد. شاه نینوا در بحث در اختیار خدای آشور بود در بابل برعکس شاه نزدیکی و سمیمیت محدودی با مردوک داشت شاه که اجازه نداشت مگر یک بار در سال وارد خانه خدای بزرگ شود خدمتگزار خداوند محسوب میشد نه خدای دیگر همچنین او می توانست قدرت خود را به مدیران دیوان سالاران یا هر هیئتی که وزیر بزرگ در رأس آن بود واگذار کند نبونید با کوشش در راه بخشیدن ابعادی الهی به قدرت سلطنتی خود را بیشتر به آشوریان نزدیک می کرد تا به دربار و ملت خود اما در بابل عرصهای وجود داشت که مقامات مذهبی در آن اهمیت شایان توجهی داشتند و نبونید از آن قافل مانده بود و آن برگزاری و گرامی داشت جشن سال نو بود شاه به مناسبت این جشن اجازه می یافت وارد خانه خدا شود و او این کار را هنگامی می انجام دهد که کاهن بزرگ تمام نشانه سلطنتی را از او دور میکرد و با زدن یک سیلی و کشیدن گوشهایش به تحقیر وی می آنگاه، شاه باید در یک نیایش رسمی برای بل سجده کند و به خدای شهر اطمینان دهد که در سال جاری هیچ گناهی مرتکب نشده، از رسیدگی به کار معابد قفلت نکرده و به حقوق هیچ شهروند با زدن سیلی به گونه او تجاوز نکرده است. قیبت شاه از بابل کار درست جامعه را به خطر انداخته بود چون برگزاری آینهای سال نو به منزلی تجدید پیمانی بود که شاه را به ملت خود پیوند میداد. پس نبونید با توقف طولانی در تما در واقع ملت خود را تحقیر کرده بود. او با بخشیدن خصلتی برتر به خدای سین در واقع به جنگ روحانیت مردوک و به طور کلی تمام طبقه روحانی و کاهنان رفته بود. مبارزه میان بابلیان و نبونید اجتناب ناپذیر شده بود. سلطنتی وانهاده در سال 547 یعنی سال نهم سلطنت نبونید مادرش عددگو اوپی کاهنه بزرگ معبد خدای سین با سنی بیش از 100 سال درگذشت. در حالی که کمی قبل از آن اعلام کرده بود و اما من دید چشمانم روشن است. هوش و حواسم به خوبی کار می کند، دست و پایم در وضع کاملا سالمی است. سخنانم ممتازند. خوراک و آشامیدنی خوب است. قلبم شاد است. او کمی قبل از مرگ احتمالا برای دیدن پسر خود به یک اردوی موقت در بورسیپا در کناری رود فرات رفته بود که بابلیان از بیم حمله کوروش، سپاهیان خود را در آنجا گردآورده بودند. او در آنجا با نوشت بلشسر دیدار کرد بلشسر پس از مرگ مادر بزرگ فرمان داد سه روز عزاداری شود و مراسم سوگ رسمی انجام گیرد یک ماه بعد در سراسر منطقه ازای عمومی اعلام شد سرانجام نبونید برای گریستن بر سر جسد مادر الهام بخش بزرگ خیش از راه رسید نبونید شاه بابل پسر برآمده از قلب او گرامی دل او، جسد او را در بر گرفت، جامهای های زیبا، زیر های درخشان، زنجیری از طلا، سنگ های زیبا، سنگ های برگزیده، سنگ های گرانبه به او آویخت جسدش را با روغن معتر تطهین کرد، او را در زیر زمین یک معبد دفن نمود، در برابر او گاو و گوسفند قربانی کرد، سپس مردم بابل و بورسیپا را گرد آورد در پی این مرگ هیجان شایان توجهی در سراسر کشور پدید آمد چه بسا در بابل با نظری سیاسی تر به این واقعه نگریسته میشد. آیا این بدان معنا بود که تبعید خودخواستی شاه به تما پایان یافته بود و بنابراین این مالک برحق قدرت را دوباره به دست می گرفت؟ از این پس خطری که از سوی شهریار تازه امپراتوری ماد پارس بابل را تهدید میکرد آشکار بود نبونید به حمایت خود از کرزوس چندان اهمیتی نمیداد و از رعایت تعهدات خود نسبت به شهریار سارد چشم پوشید. آین و پرستش سین الزامات ویژه خود را داشت. این توجیح می کند که چرا نبونید به عضلتگاه آرفانه خود بازگشت که می پنداش در آنجا مادرش را در اندیشه باز خواهد یافت و به مبارزه قدرت علیه روحانیت مردوک ادامه داد. اما نبونید با پشت کردن به پایتخت و توتعه هایی که علیه شخص او انجام می گرفت، دسیسه ها و تحریکاتی که در شهرهای ایالت جریان داشت و با پوچنگاشتن وظایف مذهبی روحانیت در واقع همه مخالفان را در دامی غیر گرفتار کرده بود. در همین سال 547، کورش در لیدی به حرکت درآمد و هرران را اشغال کرد. اما از آنجا که از بی به معبد سین خودداری ورزید، نبونید احساس نگرانی نکرد. معبد احول هل هل هنوز سر پا بود و وظایف خود را انجام میداد. یکی از دلایلی که شهریار پارس را از سال 546، یعنی بلا فاصله، پس از اشغال سارد، وادار به فتح شرق کرده بود، دقیقا همین وصفی بود که در بابل و کل امپراتوری کلده حاکم بود. کوروش نمیخواست از سوی این سلطنت وانهاده که به نظر می به نحو خطرناکی شکاف برداشته است، مورد تهدید قرار بگیرد. در غیبت شاه بابل که قدرت را به کسی واگذار کرده بود که همه او را پسر شاه می تا نشان دهند که قدرت سلطنتی را کاملا در اختیار ندارد، بابل هیچ ابتکار عمل مهمی برای رویا روی مستقیم با پیشرفت کوروش از خود نشان نداد. از سوی دیگر وضع مبهمی در ایلام وجود داشت در آنجا گوبریاس سردار بابلی و دوست سابق و وفادار نبوکدنسر که از سوی نبونیت حکومت می کرد به تازگی وفاداری خود را نسبت به کوروش اعلام کرده بود شاه بابل در مقابل چنین خیانتی فقط دستور داد خدایان آکروپول شوش را از آنجا به بابل انتقال دهند واسط بهار همین سال سرنوشت ساز گوبریاس به سوی کلد لشکر کشید و شهر اوروک را که در نیمه راه بابل و اور قرار داشت تهدید کرد از نظر نبونید نارضایتی ایلام چیزی جز حرکت ساده سیاسی نظامی نبود حالانکه تعییدی بود بر اینکه این تمدن درخشان بسیار نزدیک به تمدن سومر بار دیگر پیوندهای خود را با بین النهرین می گسه است تا به ساکنان فلات ایران نزدیک شود در واقع وا این ایالت مهم به قدرت سرداری که متحد کوروش شده بود باید از نظر نبونید و نیز پسر شاه تسلیم خطرناک امپراتوری کلده تلقی میشد حالانکه چنان نشد دولت بابل هیچ واکنشی نشان نداد، چنانکه گویی زیافت گوبریاس فقط یک پیمان شکنی ساده بود. شاید نبونید که مصمم بود ترکیب سامی کشور خود را تحکیم کند، چندان اهمیتی به قطع رابطه با ایلام نمیداد. بلشسر که نوه نبوکد نصر بزرگ محسوب میشد، حتی قبل از جلوس به قدرت از حیثیت و اعتباری واقعی برخوردار بود. او در سال 560 در حالی که نریگلیسر پادشاه بابل بود مسئولیتهای مهمی را بر عهده گرفته بود. به ترتیب به نظر می رسید که او خود را برای ایفای نقش آماده می کند. تسخیر بابل قبل از اینکه شاه بتواند به رؤیایش تحقق بخشد. نیتوکریس مادر بلشسر که تبار مصری داشت سنت سمیرامیس بزرگ را که بر بابل حکومت کرده بود در پیش گرفت. او دختر نصر و همسر نبونید بود و می توانست در سرنوشت کلده نقش مهمی داشته باشد میان فاتح اورشلیم و شاه کفالتی بابل چنان قرابتی وجود داشت که منابع ابرانی بلشسر را پسر نصر تلقی می کرد و بدین گونه بر قرابت معنوی این دو مرد که آنها را ستمگران بر جامعه ابرانی میدید دید ورزید با آنکه یهودیان معمولا نه برده بودند و نه صرف و بیشتر مهاجر تلقی می شدند آموس نبی می گفت که آنها مانند مردی بودند که از دهان شیر گریخته تا به کام یک خیرس بیفتد منظور از شیر نصر و خیرس بلشسر بود بلشسر به نظر اتباع خود مرد کاسبکاری بود که می ثروتمند شود اما او از درگیر شدن در عملیات پیچیده اجتناب می کرد و به دلالان متوسل می شد. خدمتگزار او، بعل ریسوآ، کاتب او، نبو مکین آهی، پیشکار او، نبو قواتی و مرد مورد اعتماد دیگری که مسئولیتی رسمی نداشت به نام نبو آه ایدین به منزله واسطه های او عمل میکردند. امزاهای ایشان در قراردادهای متعددی که به نام بلشسر منعقد شده است دیده میشود. زیرا خود بلشسر نمیخواست نامش بر سر زبانها بیفتد. بلشسر متفنن ساده نبود که به صادقگری تن دهد چون مسئولیت بزرگی داشت. اعمال او موفقیت سیاست پدرش را تأمین میکرد. پس لازم بود نوعی محافظه کاری مذهبی از خود به نمایش گذارد و به روحانیان مستمری بپردازد تا احساسات ضد نبونید را نزد کاهنان کاهش دهد. او همچنین کوشید معابد صدم دیده را مرمت کند برای کسانی که در آن بودند کار تأمین کند در مراسم مذهبی شرکت جوید و قربانی های لازم را به معابد تقدیم دارد. در هر یک از کارهایی که انجام میداد رضایت رضایتنامه یا شهادتنامهی برای او ارسال می شد. مانند همین مورد. یک معدن نقره، هدیه بلشسر، پسر شاه، توسط شولا، پسر اعاشوم ایدین، در معبد اعانا، در اروک، در نوزدهمین روز ماه الول، در سال پنجم سلطنت نبونید، شاه بابل، دریافت شد. کسی که نامش به معنای بعل شاه را حفظ کند بود، بدین ترتیب میخواست نبونید را از عشق افرادی نسبت به خدای سین و افرادکاری های مذهبی در این زمینه مبرا کند و به نام شاه به مردم ثابت کند که اصلاحات مذهبی نبونید به معنای نابودی طبقه کاهنان مردوک نیست. به سنتی بسیار کوهن در بینان نهرین، وارسان تاج و تخت، هنگامی که هنوز پدرشان در قید حیات بود، به نحوی در قدرت شریک می شدند که تصویر هر دوی آنها، یعنی پدر و پسر، در ذهن مردم با هم در می آمیخت و به تصویری واحد تبدیل می و بدین دین ترتیب استمرار قدرت و سلطنت تضمین می شد. این به معنای آن بود که حرکات سیاسی بلشسر بسیار اهمیت داشت. نبونید در نیایش مشهوری از خدایان میخواهد پسر او را حفظ کنند. در مورد من، نبونید شاه بابل مرا از هر گناه علیه خدای بزرگ نجات بده و روزهای زندگیم را طولانی گردان. به علاوه، در مورد بلشسر، پسر بزرگم که از رگهای من است، قلبش را نسبت به بزرگی و خداییت حراسان کن و اجازه نده که گناه کند، و چنان کن که از زندگانی خود راضی باشد. بلشسر برگ برنده نقشه نبونید بود، اما سیاست دوگانه او برای آرام کردن قرولند تمام کسانی که قیبت نبونید را نوعی فرار تلقی می کردند، کفایت نمی کرد و کوروش این را میدانست. <تصفيق> یک تجارت خانه اسرائیلی کوروش شاهد انحطاط ثروتمندترین و مولدترین امپراتوری منطقه بود. نابسامانی و فساد تمام زمینهای فعالیت بابلیان را در بر گرفته بود. کشاورزان از ستم مالیاتی و تجارتی شکایت داشتند و دیگر به کشت و زر پرداختند. گاه کمبود محصولات منجر به قحتی شد. در زمان نبو نصر معبد و کاخ یعنی روحانیت و سلطنت نقش تعین کننده ایفا می کردند و بازرگانان، صاحبان صنایع و کشاورزان به مبادله محصولات خود می پرداختند. عملیات مالی با تضمین خدای حمایت کننده که بیشتر اوقات نبو الهی ثروت و اعتبار بود انجام می گرفت. فرماندار نماینده سلطنت فقط نقش زامن تکمیلی را داشت. او نه حاکمی مستبد و نه عاملی اقتصادی بود فقط انجام تصمیمات عادلانه را تضمین میکرد اما تمرکز فعالیت اقتصادی در اطراف معبد یعنی در دست روحانیت چندان باعث تحقق سیاست بیپروایی نمیشد افزایش تدریجی املاح نمکی خاک و مسدود شدن های آبدهی به مزارع وازدهی تولید را به ویژه تولید قلات، کنجد و به خصوص خرما را که در اراضی وسیع متعلق به معبد کاشته میشد، به شدت کاهش داده بود. دولت به منظور کمک به بخش خصوصی خود را ملزم دید انجام کارهای بزرگ را بر عهده گیرد. کاخ داوطلبان را میپذیرفت و حتی ابتکارات فردی را توصیه و تشویق میکرد. بابلیان در تمام مشرق زمین بازرگانانی پویا شناخته میشدند. شهر اروک، پایتخت اقتصادی امپراتوری، سهنگردان تجارت میان ایالات گوناگون کشور بابل و خارج به شمار می رفت. تجارت خارجی بابلیان مدتهای زیادی شکوفا بود. کلدانیان مص، قل و آهن را از مهاجر های یونانی لیدی، فراورده های شیمیایی و رنگ را از مصر، و به برکت فعالیت فنیقیان محصولات مختلف کشاورزی را از سواحل مدیترانه وارد می کردند. در مقابل بابل به صدور پشم پارچه های گلدوزی شده و نیز انواع اشیای سبدبافی می پرداخت. در جهان یونانی ملیل دوزی را کار بابل توصیف می کردند. بازرگانی بین در کمال امنیت انجام می و کاروانها بدون نیاز به حمایت خاصی در سراسر کشور رفت و آمد میکردند. با این وجود، سنت کتاب مقدس به انتقال محصولات یک کشور به کشور دیگر نظر خوبی نداشت و ابریان بازرگانان بابل را حاملان قدرتی ویرانگرتر از بودپرستان میدانستند، پول و اشیاه ای که جای بودها را گرفته بود. تورات، خودبسندگی اقتصادی را توصیه می کرد، حالان که در اثر عمل قبیه بابلیان یعنی تجارت این خودبسندگی آسیب می دید. در زمان بلشسر، ابریان در موقعیتی نبودند که بتوانند به این نوع تجارت انتقاد کنند. در زمان نبونید، فعالیت اقتصادی شهر اروک مانند بیشتر مراکز دیگر کلده بسیار کاهش یافته بود. در زمینه مالی نیز و به همین خرابی بود. تمرکز نقره و طلا در خزاین معبد باعث کمبود واقعی شده بود. نقره کمیاب بود و مالکان آن در نگرانی به سر می‌بردند. با وجود این در بابل طبقه سوداگری مستقل از معبد وجود داشت که مورد اعتماد دستگاه سلطنت بود و نقش مهمی در فعالیت اقتصادی بازی می کرد. بلشسر اغلب خدمات آنها را مورد استفاده قرار میداد این مردان هم کارگزار اقتصادی هم صراف محظردار و هم وکیل مدافع بودند استفاده از نقره به عنوان عیار اصلی پول دخالت آنها را در زندگی روزانه تسهیل میکرد مشهورترین تجارتخانه بابل تجارتخانه خانواده اگیبی بود این خانواده که در سال 690 کمی پس از انهدام سامریه و تبعید اسرائیلیان در پایتخت کلده مستقر شده و نامش یادآور نام یعقوب بود در آغاز دوران دشواری را پشت سر گذاشت در نسل سوم رئیس خانواده فردی به نام سولا قراردادهای تجاری مهمی منعقد کرد که به او امکان میداد برخی از اموال غیرمنقول خیش را به رهن بگذارد در آغاز سلطنت نبونید رئیس خانواده اگیبی فردی به نام نبو آهیدین بود. همان کسی که بلشسر قراردادهای متعددی با او امضا کرده و یکی از سوداگران بزرگ زمان شاه نریگلیسر بود. اگیبی ها به صداگری می پرداختند. خرید، فروش، مبادله، اجاره مستقلات و اموال غیرمنقول. همچنین کار تجارت برده و به طور ضمنی خرید و فروش دواب را نیز انجام میدادند. پس از مرگ نبو آه ایدین در 543 پسرش ایدی مردوک بالاتو فعالیت مستقلاتی و عرضی خود را توسعه داد. این بازرگانان اسرائیلی که از آن پس نامهای بابلی اختیار کرده بودند به نشانه وابستگی و ادغامشان در تمدن کلدانی در مالکیت زمین تردیدی به خود راه ندادند. موکلان نیرومند آنها عبارت بودند از مقامات درباری، اعضای خاندان سلطنتی و افراد بسیار ثروتمند. اما خانواده اگیبی به ویژه در امور بانکی سرامد شدند. آنها متفاوت با سایر بانکداران بابلی به وام دادن، پذیرش سپرده ها و امانتگیری پول قناعت می کردند. اما هرگز بهره نمی گرفتند. و به دین ترتیب به سفارش تورات در مورد منع بهره به هر شکل احترام می‌گذاشتند تو می‌توانی از بیگان بهره بگیری اما از برادرت هرگز در مواردی که خزانه متعلق به معبد بود اگیبی ها ناچار بودند چشم خود را ببندند و در مقابل دریافت دستمزد به وام دادن نقره به روحانیانی بپردازند که از قانون عبرانی پیروی نمی‌کردند درخواست دستمزد برای وام معادل این بود که بابلیان را بیگانه تلقی کنند. باری چنان که از نامه زیر از یک بدهکار آینده به خانواده اگیبی برمیآید تمام کلدانیان برادر تلقی می شدند. صد سیکل بپرداز در مقابل نقره خودت اما در میان ما صحبت بهره مطرح نیست. ما هر دو اصیل زاده هستیم. در مقابل اگیبی ها نوعی عملیات مالی ابداع کردند که برای آن دوره اصیل و ابتکاری بود. پرداخت وام در مقابل دریافت گرویی یا چیزی به امانت. به ترتیب مخاطرات کاهش میافت و وامگیری تسهیل می شد. در زمان سلطنت نبونید زندگی اقتصادی در بابل بدین ترتیب می گذشت. یعنی در آن زمان بحران اقتصادی در اوج خود قرار داشت. عزیمت کوروش و بازگشت شاه پویایی بازرگانان و سوداگران جبران ناراحتی موجود در بابل را نمی کرد. غیبت شاه باعث بحران شدید و فقدان اعتماد اقتصادی شده بود. در زمینه سیاسی نیز وضع بهتر از آن نبود. به رقم کوشش های بلشسر، غیبت شاه ناراحتی زیادی برانگیخته بود. بابلیان از هر سو جز خطر آسیب برای امنیت خود مشاهده نمی کردند. سرزمین وسیع ایران که در نزدیکی بابل قرار داشت، آشوب اعراب که با وجود حضور نبونی در تما تجارت با مصر را دچار مخاطره کرده بود و انسداد بندرها در اثر عدم لایروبی، همه اینها مانع توسعه روابط با عمق آسیا می شد. بابلیان انگیزه های دیگری نیز برای نگرانی داشتند. بردگان که بیشتر آنها به علت عدم پرداخت قرض یا جرایم دیگر به بردگی افتاده بودند، تشدید وخامت شرایط اقتصادی را به منزله پایان هرگونه امید آزادی تلقی می کردند. سرب‌ها که از لحاظ نظری دستمز دریافت میکردند و منزلتی کمابیش مشابه کارگران آزاد داشتند امکان رهایی از وضع اسفبار موجود را نداشتند و عواقب رکود اقتصادی بیش از همه دامنگیر آنها بود حتی مردمان آزاد، صرافان، بازرگانان، کارکنان معابد یا کاخ سلطنتی، همه افراد طبقه متوسط باید تأثیرات منفی زندگی بدون امید به پیشرفت را تحمل می کردند. برای کسانی که مقامات رسمی داشتند، اداره کشور بیش از پیش دشوار میشد و بالاخره درباریان یعنی نزدیکان شاه و پسرش با آگاهی از وخامت اوضاع که ناشی از غیبت شاه بود پیوسته مشغول دسیسه بودند نبونید از افراد ممتاز رژیم خشمگین بود و به ویژه سیستم اجارهداری عمومی را که به نمایندگان شاه امکان میداد به زیان بهره برداران به سودهای کلان دست یابند حذف کرد او با باز دادن زمین ها به افراد خصوصی مخاطره ناراضی کردن بهترین هواداران خود را پذیرفت در حالی که طبقه روحانی نیز که از لحاظ مذهبی تحقیر شده بودند وی را بدترین دشمن خود می دانستند بدین ترتیب جنبشی هواخواهانه نسبت به یگان قدرت منسجم منطقه یعنی کوروش ایجاد شده بود کوروش در مجاورت بابل یک امپراتوری متمرکز اما غیر ستمگران پدید آورده بود. دشمنی فضاینده با نبونید در کتیبه ها و رویدادنامه های بابلی آن زمان به این مضمون بازتاب یافته است. او به قانون منشأ نظم اعتنایی نکرد، مردم کوچک را از بین برد و نجیب زادگان را در جنگ به کشتن داد و راه بازرگانان را مسدود کرد. و آواز آنهایی که کشت میکنند دیگر در روستاها شنیده نشد و دیگر بر خاک بارور شیاری افکنده نشد او به اموال آنان دست برد زد و هر آنچه داشتند گرفت دیگر در خیابانهای بزرگ رفت آمد مردم وجود نداشت و دیگر نه و نه دیده شد و به نظر او خدایان حامی محبوب و كهن دشمن شدند و او در بدبختی غرق شد او برخلاف خاست خدایان کرداری زندیقانه انجام داد. او نقشه بی در سر داشت. او تصویر خدایی را ساخت که هیچ کس تا کنون در کشور ندیده بود. آنگاه این خدا را در معبد بر سکوی قرار داد و آن را نانا نامید. و در زیر سنگ لاجوردی که بر فراز تاجی قرار داشت به پرستش آن مشغول شد. و نبونید گفت ما ابدی برای او میسازم و تخت او را برپا میدارم نخستین سنگ آن را خواهم ساخت و پیهای آن را به استواری بنا خواهم نهاد آن را برای ابد اهل هول خواهم نامید و هنگامی که نقشه خود را کاملا اجرا کردم آن را با دست خود خواهم گرفت و بر تخت خواهم نشانید. تا هنگامی که نقشه خود را تماما به اتمام نرساندم و آرزوی خود را تحقق نبخشیدم از هر گونه برگزاری آیین مقدس خودداری خواهم کرد. فرمان خواهم داد که جشن سال نو برگزار نشود. او پس از آنکه آنچه می‌خواست انجام داد، کاری با خدعهی بسیار که این محل منفور را ساخت و این کار کفرامیز را انجام داد، آنگاه فرماندهی را به پسر ارشدش سپرد. او همه چیز را آشفته به حال خود رها کرد. و سلطنت را به پسرش واگذار نمود و خود به سوی تما در دور دست قرب رفت. او شاهزاده تما را کشت، او مردمی را که در شهر یا در اطراف زندگی می کردند قتل عام کرد. او تمام ساکنان، زنان و کودکان را کشت، به اموال آنها دست انداخت و نیز هر جویی را که یافت. او به درامیختن شعائر و پریشان کردن هاطفان ادامه داد و به مهمترین قواعد آینی پایان بخشید. اشاره به قتل عام مردم در تما و اعدام شاهزاده آنجا، ویژه بودن وضع روحی حاکم در بابل را نشان می‌دهد. در مواقع دیگر، بیگمان قتل عام اعراب دوردست بیابانی در کویر هیچ انتقادی را نسبت به پادشاه کلد بر نمی‌انگیخت. یادآوری خشونت شاه مطلوب مردمی بود که هوادار ایرانیان بودند. باری اکنون همه میدانستند دخالت کسی که اهالی لیدی، یونانیان و بسیاری از مردم شرق را مغلوب کرده بود در بابل فقط مسئله روز است. اما نبونید که همچنان در تما به سر میبرد در اندیشه مسیری بود که حمله کوروش از آنجا انجام میگرفت. او این را منتفی نمی دانست که شهریار جدید پارس ها علیه نماد بابل که در وجود شاه تجلی یافته بود و در شهری مستقر شده بود که خود بازسازی کرده بود و آن را قلب امپراتوری جدید حاکم سامی می وارد عمل شود. اما کوروش به هیچ وجه قص نداشت به فتح واهی در قلب عربستان بپردازد چون بابل در دسترس او بود. با وجود این شاه حخامنشی با این امید که مردم را به سوی خود جلب کند تصمیم گرفت به خلع شاه در پناهگاه بیابانی خود نپردازد بلکه موضع پارس‌ها را در شمال امپراتوری جدید مستحکم سازد. سوریه لمگزرع وسیع، فلسطینی که بیشتر ساکنان آن تبعید شده بودند و شهر دمشق هدف‌های آسان و در عین حال مواضع استراتژیکی مهمی به نظر میرسیدند به خصوص اتحاد با چادرنشینان عرب این مناطق جنبهی ای اساسی داشت این اتحاد روابط بازرگانی با لیدی و مصر را تسهیل و امنیت کویر را تضمین کرد. بنابر این شاه ایران دمشق، یهودیه و کشور قدیمی اسرائیل را اشغال کرد او بنا بینش سیاسی خیش نمیخواست به ملل مغلوب ستم کند بلکه میخواست آنها را دوست و متحد خیش سازد ظاهرا عرب نیز با رضایت و قرور به شاه بزرگ کمک کردند و برای او سرباز فرستادند تا به فتح بابل بپردازد چون به خوبی می دانستند که کار دشمن آنها که تما را اشغال کرده بود تمام است از نظر نبونید حرکت نیروهای ایران خطر مرگاوری بود شاه بابل که هرگز جنگ علیه قبایل عرب را در شپ جزیره قطع نکرده بود از مشکلات بزرگی که انتظارش را می کشید، آگاه شد به علاوه حضور نیروهای حخامنشی حتی به کمترین تعداد در این مناطق کافی بود که هر گونه راه تجاری را با شمال یعنی یگان منطقهی که به بابلیان امکان می‌داد در انزوا نمانند مسدود کند ناگهان نبونید به آسی پذیری موقعیت خود پی برد اگر او میخواست ارتباطاتش با بابل مورد تهدید قرار نگیرد و در واقع قطع نشود، باید تصمیمی فوری میگرفت. او باید از بینش عارفانه خود درباره جهان چشم می‌پوشید، مقابله با سرنوشت سیاسی خود را میپذیرفت و به بابل باز می‌گشت. البته نه برای آنکه مقاومتی را در برابر ایرانیان سازمان دهد، بلکه برای آنکه از محاصری شهر و خلع خود از پادشاهی کلده جلوگیری کند. اکنون سال 542 بود بازگشت شاه باعث شادی و حیجان عمومی نشد مردم بابل که زیاده از حد انتظار کشیده بودند دیگر چنان که او میپنداشت پنداشت وی را نجات دهنده تلقی نکردند آنها همچنان به آن سوی مرزها مینگریستند و منتظر دخالت ایران بودند اما دستکم در عرصه مذهبی و از روشن به نظر می رسید و سلسله جهشت ترتیب داده شد به هر حال شکوه این جهشت گرچه بابلیان را کاملاً آسود خاطر نمی‌ساخت، وسیله‌ای برای تسکین نگرانی بود. نبونید به محض بازگشت اقدام کرد که در واقع جزو خصلت او بود. برای آنکه حمایت از خیش را بهتر تأمین کند، دستور داد تمام خدایان اصلی شهرهای بزرگ امپراتوری، به ویژه هه شهرهای سیپار و بورسیپا را یعنی شهرهایی که در مسیر کورش قرار داشتند به پایتخت منتقل کنند. این اقدام مردم آن شهرها را که از حمایت خدایان خود محروم شده بودند غرق پریشانی و تشویش کرد. آنها نیز رو به سوی کورش آوردند به علاوه نبونید فرمان داد تندیس الههی ایشدار که در آن زمان در اروک بود و نیز تندیس های تمام الهه های دیگر را به بابل بیاورند عواست تابستان سال 539 تمام خدایان اکد تمام خدایانی که در زیر و روی خاک قرار داشتند به بابل آورده شدند نوعی آشفتگی مذهبی حقیقی در شهر بزرگ پدید آمد نبونید در واقع با تحقیر مردوک یادآوری علاقه شدید خود به سین و با آوردن الهه های شهرهای دیگر به بابل خود را در برابر ملت قرار داد. رویدادنامه گزارش می دهد، پرستش مردوک شاه خدایان به دست فراموشی سپرده شد. او پیوسته شهر خود را ناراحت می کرد. هر روز مردم خود را عذاب می داد. او با یوقی بی رحمانه همه را ناراحت کرد، از شکفه و زاری مردم مردوک خشمگین شد، خدایانی که در میان آنها ساکن بودند، مساکن آنها را ترک کردند. پس از هارپاگ و اوریبات، اکنون گوبریاس ارتش کورش که آماده عبور از رود دجله می شد، مشابه ارتشی بود که به سال 547 در نزدیکی اربیل به ساحل دیگر رودخانه رفته بود تا لیدیایی ها را مغلوب کند. در زمستان 540 تعداد سپاهیان تحت فرماندهی کوروش در حالی که شخص شاه در رأس آنها قرار داشت زیاد بود و سلاحهای مجهزی داشتند. حضور کوروش باعث گردآمدن تعداد زیادی عرابه چهارچرخه شده بود که با قاطر شاه را در هر جا جایی همراهی می‌کردند. یکی از این عرابهها کوزههای نقره‌ای محتوی آب جوشانده حمل می‌کرد که از آب رود کرخه پر شده بودند. این رود وقف ناهید ایزد پاکی بود که در کوه ایلام جریان داشت ارودوت مینویسد نویسد هر وقت پادشاه ایران ازم جنگ کند نه فقط از املاک خاصه او آزوغش را فراهم می سازند بلکه از رودخانه کرخه که از وسط شهر شوش جاری است برای او آب همراه میبرند. هیچ شهریاری جز آب همین رودخانه نمی نوشد و پیوسته مقادیر زیادی از آن را جوشانیده در کوزه های سیمین بر گردونه های چهار قاتری هر جا که شاه می رود می گذر از رود دجله که برای شاه آنشان به اهمیت رود هالیس در هفت سال پیش بود، در شرایط آسانی انجام نگرفت. به نوشته هرودوت، گروش هنگام لشکرکشی به بابل به رودخانه دیاله رسید و آن رودخانه به دجله وارد می شود و پس از عبور از وسط شهر اوپیس به خلیج فارس می ریزد. گروش تصمیم داشت از این رودخانه عبور کند اما لازمه آن داشتن قایق بود. یکی از عصبهای مقدس او که بسیار باهوش بود داخل آب شد تا به وسیله شنا از آن عبور کند. آب حیوان را برد و غرق کرد. کوروش از گستاخی رودخانه به خشم آمد و عزم کرد که رود را چنان ضعیف و زبون سازد که حتی زنان بدون زحمت از آن بگذرند پس لشکریان را فرمان توقف داد و در هر طرف رودخانه نقشه 180 کانال کشید که هر کدام مسیری متفاوت داشت و سربازان را فرمان کندن داد و چون عده بسیاری کارگر در اختیار داشت اراده خود را به مورد اجرا گذاشت وقتی کوروش بدین وسیله دیاله را با ایجاد 360 شاخ مجازات کرد، در آغاز تابستان بعد به مقصد بابل عظیمت کرد. آیا چنان که هرودوت می نویسد کوروش می خواست از یک رودخانه انتقام بگیرد؟ او بدون شک دریافته بود که با کانالکشی می توان این منطقه را که بد آبیاری شده است حاصلخیز خیز کرد. شاید او میخواست کمی قبل از فتح آسان پایتخت بابل شروع به نوسازی کلده کند و چنانکه در کشور دوردست سوقد کرده بود به کارهای بزرگ لازم برای توسعه منطقه بپردازد. کوروش با کانالکشیهایی که کرد در واقع یک تابستان را از دست داد ولی آیا این زمان خیلی گرام بها بود؟ همه چیز شهریار پارس را وادار میکرد حمله خود را به تأخیر اندازد و زمینی را که روی آن پیش می رفت، مستحکم کند. بی تردید این تأخیر امدی هدف ای داشت. فرصت دادن به این که بابل به حد پختگی و آمادگی کامل برسد و همینطور همه ی کسانی که در آرزوی مداخله او بودند خود را آماده کنند و بدین ترتیب در نبرد قطعی بابل جویی شود و کروش بتواند از ویران کردن شهر بزرگ چشم بپوشد. با وجود هرج و مرج حاکم در بابل به دلیل بازگشت شاه، توقف طولانی سپاهیان ایران در کناری سرزمین بابل به کلدانیان وقت کافی میداد تا موازه خود را روشن کنند و بلشسر بتواند به مقاومت سازمان دهد. در رأس سپاه پارس گوبریاز قرار داشت. این حاکم سابق شوش که خود اهل بابل بود نقش استراتژیکی داشت که از اهمیت درجه اولی برخوردار بود. او از زمان پیوستن به کوروش آموخته بود محاسن و فضایل ایرانیان و به ویژه پارس‌ها را بشناسد. پرهیزکاری آنها با روحیه کلدانیان تضاد زیادی داشت. گزنوفون زنوفون گزارش می‌دهد که گوبریاس در اولین شامی که در اردوی کوروش صرف کرده بود از قناعت و اندکی غذاهای سفره تحت تأثیر قرار گرفته بود. او به خود میگفت که در کشور او با دقت و ظرافت بیشتری عمل میشد. او به کمخوراکی هم های خود توجه کرد زیرا هر پارسی آموخته است که سر سفره در مقابل خوراکها و نوشیدنی ها انان اختیار خود را از دست ندهد. نگاهی آزمندانه و حرکتی حریسانه نسبت به آنها نشان ندهد و خیشتنداری خود را چنان حفظ کند که گویی بر سر میز غذا نیست. به نظر ایرانیان، هیجان ایجاد شده با دیدن خوراک و آشامیدنی خاص خوکها و حیوانات وحشی است. او همچنین مشاهده کرد که آنها سر میز غذا پرسش‌های را میان خود مطرح می‌کنند که جای آنها سر سفره است درباره موضوعهایی با هم مزاح می‌کنند که جایشان سر سفره است و در شوخی‌های خود از هر گونه توهین به یکدیگر، حرکت نابجا یا تندخویی نسبت به یکدیگر می‌پرهیزند. حضور گوبریاس در رأس سپاهیان پارس باعث تعجب نبود. در واقع کوروش از زمان اولین حرکتش از پاسارگاد یازده سال پیش دو پیکار قطعی را به برکت همین افرادی برنده شده بود که به اربابان خود پشت کرده و به او پناه آورده بودند مگر هارپاگ مرد مورد اعتماد آستیاگ نبود که به او امکان داد بر سپاهیان ماد پیروز شود و های یونانی آسیای صغیر را تصرف کند مگر یک لیدیایی به نام اوریبات نبود که به او اطلاع داده بود پادشاه لیدی سپاهیانش را برای حمله به او بسیج کرده است همین آگاهی به پارسها امکان داد به اقدامات استراتژیکی بپردازند که سرانجام با پیروزی آنها خاتمه یافت و امروز در آستانه فتح بابل مگر یک بابلی نیست که هدایت عملیات را بر عهده دارد پیوستن این سه مرد به کوروش به آن معنا بود که جهان بینی خاص پارسیان از همان آغاز امید مردانی را که منقاد قدرت سیاسی زمانه بودند و از ستم و خشونت خسته شده بودند به خود جلب کرده است بنابراین این گوبریاس فرماندهی پارس‌ها را بر عهده داشت در حالی که پسر کوروش کمبوجی جوان که نام پدر بزرگش را داشت در جریان نبرد نقش کم رنگتری بازی می‌کرد او محصول ازدواج شاه آنشان با شاه دخت کاساندان یک دوشیزه هخامنشی بلند پایه بود و چون وارث امپراتوری پارس بود میخواست جایگاه شایسته احراز کند. او در این لشکرکشی از پدرش پیروی میکرد. درگیری در کرانه دجله در اوپیس یعنی سلوکیه بعدی روی داد. ارتشی که بلشسر و نبونید بسیج کرده بودند، کوشید حرکت پارس‌ها را متوقف کند. به محض آغاز نبرد، بسیاری از بابلیان علیه فرماندهان خود شوریدند و به سپاهیان کوروش پیوستند. با این حال، عده زیادی کشته شدند. آغاز پاییز سال 539 بود و در پیشرفت پارس‌ها به سوی قلب کلده هیچ تردیدی وجود نداشت. کمی پس از پیکار اوپیس پارس‌ها وارد سیپار شدند ولی هیچ جا را ویران نکردند. به ترتیب اهالی شهر که نبونید آنها را به نحوی خشن از خدایانشان محروم کرده بود دریافتند که بیهوده به نیک نهادی کورش امید نبسته بودند و او به راستی شهریاری نرم خوست. شاه هخامنشی سرور جدید منطقه شناخته شد. کوروش دو روز پس از تسخیر شهر سیپار به اندازه زمانی که یک کاروان برای رفتن از سیپار به بابل سرف میکرد به مقابل دیوار ماتها رسید که نبو مقتدر آن را بنا کرده و به رقم اتحاد خود با شاه اکباتان آنجا را چونین نامیده بود. این دیوار دفاعی بابل که در چند ده کیلومتری قلب شهر قرار داشت به سرعت تسخیر شد. زیافت بلشسر کورش در آغاز گرد دیوارهای زخیمی که شهر را فرا گرفته بودند گشتی زد. او سردارانش را احضار کرد و گفت متحدان ما به منظور بررسی دور شهر گردش کردیم. من راهی برای ورود به برج باروهای محکم و مرتفع این شهر و تصرف آنها نمی بینم. اما مردم زیادی در شهر اقامت دارند و چون همگی برای پیکار از شهر خارج نمی شوند من فکر می کنم شهر را محاصره کنیم و آنها را به گرسنگی بکشانیم. اگر پیشنهاد دیگری ندارید، بر این عقیده ام که محاصره را آغاز کنیم. گوبریاس با تایید همراهان نزدیک خود بر این واقعیت پای فشرد که شهر نه تنها با برج و باروی خود بلکه رود فرات محافظت می شود. این رود آنقدر عمیق است که اگر دو نفر روی شانه های یک قرار گیرند باز قادر به عبور از آن نیستند. اما رود از میان شهر عبور می کرد و سرانجام این نظر پذیرفته شد که بهتر است جریان رود را منحرف و سپس از بستر خشک آن به شهر رخنه کنند. این عملیات را اده کمی از سربازان اجرا کردند. گوبریاس که با محل به خوبی آشنایی داشت مأمور انجام این کار شد. اما چگونه میشد به عملیات خاک برداری بدون ایجاد مزاحمت برای محاصره شوندگان پرداخت پارس ها و متحدان آنها تصمیم گرفتند این تصور را ایجاد کنند که برای محاصره طولانی آماده میشوند و هدف از خاک برداری تأمین بهترین مراقبت از محل است پس کوروش فرمان داد برج های متعددی روی محل های خاک برداری شده بسازند وقتی گودال بزرگ در دو سوی شهر ایجاد میشد، امکان تسخیر بابل را فراهم میکرد. بلشسر مقدار زیادی آزوقه در شهر انبار کرده بود. او تصور میکرد در پناه استحکامات وسیع خود میتواند مهاجری حداقل ده ساله را تحمل کند. اما نبونید که پیشبینی می کرد شهر سقوط می کند و چندان مایل نبود با کوروش متحد سابق خود رو در رو شود راه فرار در پیش گرفت و از یگان راهی که بازمانده بود یعنی راه غرب از شهر خارج شد. کوروش پس از اطلاع از گریز او سرفرماندهی ارتش خود را به گوبریاس سپرد و خود با سپاهی کوچک به تعقیب شاه فراری پرداخت. هدف او ممانعت از نبونید جهت سازماندهی مقاومت جدید نبود. این شاه سالمند و خسته از قدرت به هیچ وجه قادر به این کار نبود. شهریار پارس برای کامل شدن پیروزیش بر بابل باید شاه آنجا را به زانو در میآورد. نبونید خوش اقبال نبود. سواران عرب جاده ای را که او انتخاب کرده بود مسدود کرده بودند. آنها می‌خواستند انتقام سرنوشتی را که شاه بابل برای چادرنشینان نشینان تدارک دیده و به قتل عام خانواده شاهزاده تما پرداخته بود بگیرند. نبونی ترجیح داد به عقب برگردد و از مقابل بدویانی که مانند خود او پرستنده خدای ماه بودند بگریزد و خود را تسلیم کورش کند. بیش از چهل هزار سرباز در پای دیوارهای بابل اردو زده بودند. و این البته بدون محاسبه انبوه داوطلبانی بود که متحدان کورش برای او فرستاده بودند. بلشسر عادت داشت مسئولیت‌های عالی را خود بر عهده بگیرد. با وجود این امروز ترین نمایشنامه سوگناک و در عین حال خنده آوری را بازی می‌کرد که هجده سال پیش شروع شده بود. یعنی هنگامی که پدرش او را به حرران احضار کرده و به نیابت سلطنت برگزیده بود. امروز دیگر مسئله این نبود که با درخواست های مذهبی روحانیت مردوک مقابله کند یا بکوشد اقتصاد در حال تزلزل را شکوفا نگاه دارد بلکه باید پارس ها را از کنار باروی بابل دور می کرد. از این لحاظ شکست اوپیس دیگر هیچ امیدی برای پسر نوونید باقی نگذاشته بود با این همه او پنداشت وضع دفاعی بابل استوار است بلشصر با وجود اضطراب نهانی خود و برای تسکین نگرانی دوستانش جشنی در کاخ خیش ترتیب داد که به نوشته هرودوت گویی برای آنها یعنی اهالی بابل روز جشن بود و اهالی در آن روز سرگرم جشن و سرور بودند و با آنکه شهر در شرف سقوط بود ایشان به رقص و پایکوبی مشغول بودند تا اینکه وقوع فاجعه آنها را از خواب قفلت بیدار کرد کتاب دانیال نبی که بیش از سه قرن بعد نوشته شده است به این زیافت بلشسر چونین اشاره می کند. بلشسر پادشاه زیافت عظیمی برای هزار نفر از عمرای خود برپا داشت و در حضور آن هزار نفر شراب نوشید. بلشزر در کیف شراب امر فرمود که ظروف طلا و نقره را که جدش نبوکد نصر از هیکل اورشلیم برده بود بیاورند تا پادشاه و عمرایش و ها و کنیزهایش از آنها بنوشند شراب می نوشیدند و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را تسبیح می‌خواندند در همان ساعت های دست انسانی بیرون آمد و در برابر شمدان در گچ دیوار قصر پادشاه چند کلمه نوشت و پادشاه کف دست را که مینوشت دید. آنگاه حیعت پادشاه متغیر شد و فکرهایش او را مسترب ساخت و بندهای کمرش سست شده زانوهایش به هم میخورد. پادشاه به آواز بلند صدا زد که جادوگران و کلدانیان و منجمان را احزار نمایند. پس پادشاه حکیمان بابل را خطاب کرده گفت هر این نوشته را بخواند و تفسیرش را برای من بیان نماید به ارغوان ملبس خواهد شد و طوق زرین بر گردنش نهاده خواهد شد و حاکم سوم در مملکت خواهد بود اما آنها نتوانستند نوشته را بخوانند یا تفسیرش را برای پادشاه بیان نمایند پس بلشسر پادشاه بسیار مضطرب شد و هیئتش در او متغیر گردید و عمرایش مضطرب شدند. این سه کلمه‌ای که دست مرموز بر دیوار کاخ نقش کرده بود چنین بودند: منا، منا، سقیل، فرسین. بنا توصیه ملکه مادر بلشسر تصمیم گرفته شد دانیال یهودی را بیاورند که استعداد او برای تعبیر خواب و معرفت و فتانت و حل معماها و گشودن عقدهها معروف بود به ویژان که او شاهد رویدادهایی بود که پس از غارت معبد اورشلیم و تاراج خزاین اتفاق افتاده بود مگر نه اینکه او یکی از گروگانهایی بود که نبوکدنصر از یهودیه با خود آورده بود دانیال پس از آنکه دلیرانه به اعمال کفرآمیز فاتح اورشلیم در تاراج ظروف مقدس معبد و مجازاتی که خداوند برای او مقرر داشته بود اشاره کرد، تاکید نمود که بلشسر نیز که خود را بر ضد خداوند آسمانها بلند ساخته و دستور داده از ظروف خانه خدا را به حضورش بیاورند و در آنها با عمرها و هایش شراب نوشیده و به تسبیح طلا و نقره و برنج و آهن پرداخته، شایسته الهی است. او اعلام کرد تفسیر این سه کلمه این است منا منا یعنی خدا سلطنت تو را شمرده و آن را به انتها رسانیده است سقیل یعنی تو در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده ای فرس یعنی سلطنت تو تقسیم گشته و به مادها و فارسها بخشیده شده است کلمه نخست ای که به دست خدا نقش شده بود، به این معنا بود که روزهای سلطنت بلشسر شمرده شده و به پایان رسیده است. دانیال گفت که به اراده خداوند بزرگ این سلطنت زیاد طول کشیده و خاتمه یافته است. بنابرای روایت تورات، بلشسر که به شمار روزهای سلطنتش زیاد توجه داشت، فقط هنگامی بران شده بود که از ظروف مقدس یهودیان استفاده کند، که مطمئن شده بود آنها دیگر نمی توانند به میهن خود بازگردند در واقع بلشسر میدانست که ارمیای نبی پیشگویی کرده است که مدت تبعید ابریان بیش از هفتاد سال طول نخواهد کشید و خداوند میگوید چون مدت هفتاد سال بابل سپری شود من از شما تفقد خواهم نمود و سخنان نیکو را که برای شما گفتم انجام خواهم داد به این که شما را به این مکان باز خواهم آورد بلشسر بیدرنگ به محاسبه پرداخت نبو نصر چهل و چهار سال سلطنت کرده بود اویل مردوک دو سال نریگلیسر پنج سال لبشی مردوک یک سال نبونید تاکنون تا کنون ده سال که مجموعاً میشد هفتاد سال پس مهلت تمام شده بود و یهودیان از این پس هیچ بختی برای بازگشت به میهن خود نداشتند پیشگویی ارمیا غلط از آب درآمده بود دیگر هیچ نیازی نبود مراعات این قوم بشود و به ظروف مقدس احترام گذاشته شود و به رغم خطری که های بابل را تهدید میکرد بلشسر زیافت بزرگ خود را ترتیب داده بود که به سرعت با ظهور دست مرموز قطع شد دانیال میدانست که پسر نبونید اشتباه میکرد تاریخ آغاز محاسبه برای تبعید یهودیان به بابل آغاز سلطنت نصر یعنی سال 604 نبود بلکه تاریخ انهدام معبد اورشلیم یعنی سال 586 بود. زمان معود هنوز فرا نرسیده بود و بی حرمتی بلشسر باید مجازات میشد. دومین کلمه کتیبه الهی واجه سغیل بود که به نظر دانیال هر دو هجای آن معنای انداز گرفتن و داوری کردن می داد. خداوند متعال درباره سلطنت بلشسر قضاوت می کرد و داوری او نسبت به پسر نبونید نامساعد و منفی بود. نه فقط به این دلیل که پادشاهیش آسیب رسان یا همراه با خشونت بود، بلکه از آن رو که بلشسر نتوانسته بود خدای راستین را بشناسد شایستگی های مردی که امروزه زیافت داده بود ناکافی بودند این کلمه سرنوشت فردی بلشسر را معین می کرد این اعمال بلشسر بود که در ترازوی خداوند سنجیده میشد و مورد داوری قرار می گرفت نه تاریخ بابل و سرانجام کلمه فرس معنای دوگانه داشت هم به معنای تقسیم بود یعنی سلطنت بابل میان دشمنانش پارس‌ها و متحدان ایشان تقسیم میشد و هم خود کلمه بسیار نزدیک به واژه پارس بود کتیبه الهی نمی‌توانست معنای دیگری داشته باشد جز آن که امپراتوری بابل فرو می پاشید و به دست پارس‌ها میافتاد. گوبریاس تصمیم گرفت صدهای شکستنی را که مانع ریزش آب فراد به درون کانال هایی می شدند که بهترین مهندسان کروش ساخته بودند، خراب کند. سردار بابلی، فرمانده سپاه پارس، طبق فرمان شاه بزرگ که کمی قبل از حمله صادر شده بود، رفتار کرد. اگر در میان شما کسانی هستند که از تیراندازی آنها از بالای بام ها اندیشناک باشند، تأکید می‌کنم چون این ترس و بیم را کاملا کنار بگذارند. چون اگر سر بام ها بروند ما نیز خدای مددکاری داریم که آتش است. تاق و ایوان آنها به سادگی آتش می‌گیرد، چون از چوب درخت خرماست و با غیری اندود شده که آتش زاست. ما با مشعلهای خود آتش بر زندگی ایشان خواهیم انداخت و فتیله و قطران نیز فراهم داریم. مجبور خواهند شد، از خانه خود فرار کنند یا پاک بسوزند. تعلیمات شاه روشن بود. در صورت مقاومت، حمله پارسها باید انقدر سریع باشد که بتواند مانند آتش یک شب تابستانی دشت های های هرز را بسوزاند. اما پارس‌ها بدون آنکه نیازی به نبرد پیدا کنند از زیر باروها گذشتند و شهر خاموش را اشغال کردند در حالی که در کاخ شاه زیافتی که بلشسر برپا کرده بود جریان داشت با وجود این هنگام ورود به قصر نبرد کوتاهی میان قراولان و مهاجمان در گرفت که هیاهویی برپا شد و جشن را به هم ریخت شاه کفالتی دستور داد بروند ببینند علت این سراسدا چیست درهای کاخ باز شد و مهاجمان به درون ریختند تاثیر قافلگیری کامل بود بلشسر خود را روبروی گوبریاس و مردانش دید که سلاح به کف داشتند جانشین شاه بابل و وارث شاهان عکد و سومر ضربه مرگ را دریافت کرد بدین ترتیب بابل زیر قدرت سرداری قرار گرفت که خود تحت فرمان پارسها قرار داشت. بابل بدون نبرد و به رغم قدرت نظامی، معنوی و منابع اقتصادیش مغلوب شد. کوروش با یاری سربازان و متحدان گوناگون خیش از این پس ارباب شهر کانون عالم بود. نخل‌های سبز زیر پای او گسترده می شوند. آغاز پاییز 539 هر بابلی میدانست که سرنوشت دگرگون شده است. ملل تبعید شده در درجه اول یهودیان فروپاشی قدرت را معلول تبعید خود میدانستند. در انتظار ورود فوری شاه بزرگ به شهر، رهایی بخش مللی که به شهرت اخلاقی او آشنا بودند، امید خود را باز یافته بودند. سرانجام، چهل و هشت روز پس از مرگ بلشسر، کوروش که دستور داده بود نبونید را زندانی کنند، وارد بابل شد. برگهای نخل سبز زیر پای او گسترده شده بود و آرامش بر شهر حکم فرما بود. اینچنین زندانیانی که درهای زندانها به روی آنها گشوده شده بود و اهالی بابل قلبی سرشار از شادی داشتند. سربازان کورش، پس از کشف اکباتان کوهستانی و پس از رخنه در رازهای هزار گونه سارد سوداگر و مرفه، امروز وارد بابل فوقلاده شده بودند. شهری با صد هزار جمعیت، هزار معبد، کاخهای بیشمار و برجی غولاسا. شهر بی همتایی که نظم زیبای آن در هیچ شهر دیگری نظیر نداشت. با این حال بابل شهری استوار بود که از آن خوب محافظت می شد. نخستین استحکامات آن جاده شمال را به وسعت 17 کیلومتر مسدود میکرد و بر ورودی دروازه ایشدار حاکم بود دفاع دیگر شهر برج‌هایی با دو دیوار آجری بود که راه روی با 7 متر عرض داشت و مدافعان میتوانستند به آسانی از داخل آن عبور کنند در این بارو 8 دروازه شهر گشوده میشد که همگی وقف خدایان حامی شهر بودند در ایشتار به ارتفاع 25 متر و با چهار برج با آجرهای لعابدار آبی رنگ پوشیده شده بود و در آن 175 برجستکاری دیده می که تصویر حیوانات به ویژه اژدها نماد مردوک و گاو نماد حدد بر آن نقش شده بود. مسیر راهپیمایان مذهبی که از این دروازه میگذشتند و از سراسر شهر عبور میکردند با بلوگ های آهکی سنگ فرش و میان آنها با غیر بند کشی شده بود. رهگذران می روی هر سنگ آهکی این کتیبه را بخوانند که به فرمان سازنده آن پیوسته تکرار میکرد. نبو کدنسر، پادشاه بابل پسر نبو پلسر. پادشاه بابل من هستم خیابان بابل را من با مکعبهای سنگی که از کوهستان برای راهپیمایی جهت خدای بزرگ آورده اند، سنگ فرش کردم باشد که مردوک خدای من حیات جاودانه به من انایت کند در قلب شهر نزدیک دیوار بارو نه چندان دور از دروازهی که وقف الهه باروری بود مقر تابان مسکن علا حضرت مرکز کشور یعنی کاخ سلطنتی نبو نصر قرار داشت. دروازه عظیمی بر ورودی سکونتگاه سلطنتی مشرف بود که درون آن پنج حیات متوالی قرار داشت. تالار تختگاه با ابعاد وسیع پنجاه و دو در هفته متر با نمای آجری آبی رنگ آراسته شده بود و بر روی آنها نقش درختان نخل و گلها در کنار شیرها وجود داشت. در کنار کاخ سلطنتی دجی وسی احداث شده بود که دیوارهایش با ارتفاع 25 متر مشرف به رود فرات و باقهای معلقی بودند که نووکدنسر برای همسرش ملک آمیتیس ساخته بود. قلب پر جمعیت شهر از کوچه پس کوچه های به هم ای در مرکز تجارتی بابل تشکیل شده بود. کاروانیان، بازرگانان، آب فروشان و آبآوران، آوران، میوه فروشان و بردگان در حال راه باز کردن برای عبور اربابان خود، انبوهی از مردان و زنان و کودکان مخلوط با رمالان و فالبینان، حال اگر از ذکر خود فروشان بگذریم در بازار بابل، مشغول رفت آمد بودند. در امتداد خیابان آبی معبد ایشتار قرار داشت که یکی از سه معبد شهر بود که وقف خدایان بزرگ شده بود. میگفتند در بابل 180 محل وجود داشت که به خاطر پرستش الهه عشق معروف بود. معبدهای دیگری وقف حدد خدای طوفان و نرگل خدای جهنم و انهدام و پنجاه محل برای پرستش مردوک و تعداد بسیاری معابد کوچک دیگر وجود داشت. سرانجام برج بزرگ بابل با هفت طبقه برپا بود که ارتفاع آن به نود متر می رسید. این برج بر برقاعدهی با زخامت پانزده متر از آجر سفالی ساخته شده بود و حدود نود یک متر پهلو داشت. و در وسط چهارزلی نامنظمی برپا شده بود که پهلوهای آن هر یک بیش از چهارصد متر پهنا داشتند. حدود دوازده دروازه همیشه باز امکان ورود به پای زیگورات را فراهم می کرد. در طبقه آخر که با مینای آبی پوشیده شده بود معبد مردوک قرار داشت. هرودوت توصیفی از آن به دست می دهد. هیچ مجسمه الهایی در این مکان قرار داده نشده و هیچ موجود انسانی شبها به آنجا نمی‌رود جز فقط یک زن که خداوند از میان زنان دیگر انتخاب کرده و به قول کلدانیان کاهنه های این خدا هستند همین کلدانیان که من نمیتوانم حرفشان را باور کنم میگویند خدا خودش به معبد میآید و روی تخت دراز میکشد بابلیان که برج خود را یکی از ستونهای آسمان میپنداشتند، قبول داشتند همورابی که در سالهای 1792 تا 1750 شاه بود، سازنده زیگورات بزرگ بوده است. پس از انهدام بنا در زمان سنخاریب، نوکد نسر شکوه این خانه اساس آسمان و زمین را به او بازگرداند. اثر هدون و آشوربانیپال پال نیز آن را بازسازی کردند تا سرانجام شمشوم اکین برادر آشوربانیپال پال دوباره آن را ویران کرد. به نظر میرسید معبد ازاگیل معبد سربرف راشته که آن نیز وقف مردوک بود بر زیگورات تکیه دارد ولی در سوی دیگر مسیر راهپیمایان مذهبی در جنب فرات بنا شده بود. این بنای بزرگ 7600 متر مربعی باعث شادی مردم بابل بود. نبوکود در اینجا تمام تلاش ها و خزاین خود را وقف کرده بود. از طلا، نقره و سنگ های گرانبها، از برنج و چوب ماگان. همه آن چیزهایی که از لحاظ کسرت شکوه ارزشمند است. محصولات کوهستانی، خزاین دریایی، مقادیر زیادی اموال و اساسیه و هدایای شکوهمند من آنها را به شهرم بابل در برابر مردوک آوردم اکوآ، مهراب مردوک، انلیل خدایان، من دیوارهایش را مانند آفتاب درخشان کردم با طلای درخشان و نیز با گچ و سنگ لاجورد و مرمر سفید درون آن را آراستم قلبم مرا به سوی باز سازی اضگیل میخواند. من پیوسته به آن میاندیشم. بهترین چوب سدرهایی که از جنگل لبنان آورده ام آنها را برای بام ازاگیل برگزیدم. در درون معبد شاه ستونهای محکم صدر آنها را با طلای تابان پوشاندم. من برای ساختن ازاگیل هر روز دعا کردم. کمبوجیه شاه بابل نخستین تصمیم سیاسی کوروش سپردن حکومت بابل به گوبریاس بود اما شاه بزرگ میدانست که قبل از هر چیز باید به اقدامی مذهبی بپردازد تا میان روحانیت و مردم مؤمن آشتی برقرار شود او نباید میگذاشت بابلیان فراموش کنند که استقلال سیاسی خود را از دست دادهاند. کوروش می‌خواست ثابت کند که با حضور او دیگر هیچ خطری بابل را تهدید نمی‌کند. او همچنین فرمان داد خدایانی را که نبونی تبعید کرده بود به شهرهایشان بازگردانند و پرستش و آیین‌های آنها دوباره در آن شهرها برقرار شود. شهریار پارس بدین ترتیب به بابلیان نشان می‌داد که برای تأمین امنیت خود به خدایان بیگانه نیازی ندارد. سرانجام این که دوستی شهرهای دیگر را نیز جلب کرد پس کوروش به کاتبانش فرمان داد بر های سفالین اصول سیاست مذهبی او را بنویسند در روی داد نامه شاه بزرگ چنین خوانده می شود خدایان سومر و عکد که نبونید بی اعتنا به خشم شاه خدایان به بابل آورده بود من به فرمان مردوک خدای بزرگ آنها را به معابدشان و جایی که مورد علاقشان بود بازگرداندم. تمام خدایانی که من بازگرداندم میتوانند هر روز از بعل و از نبو بخواهند که زندگی مرا دراز گردانند و نسبت به من کلمات لطف آمیز برانند. اما به ویژه رویدادنامه گزارش می دهد که کوروش را مردوک برگزیده بود، آین او را دوباره برقرار کرده بود و محافظ تمام بابلیان بود. مردوک تمام کشور را از نظر گذرانید. او جویای شاهی دادگر بود که بتواند قلب خود را به او اهدا کند. او نام کوروش، شاه آنشان را بر زبان راند و او را فرا خواند و شاهنشاه تمام جهان کرد. او تمام مردمان شمال را به پای او انداخت. تمام مردمانی که گیسوانی سیاه داشتند، دستهای او را گرفتند و او دادگری خیش را به آنها نشان داد. مردوک، خدای بزرگ، حامی مردم خود، با شناخت اعمال نیک و قلب دادگر او، او را با نظر عنایت می نگرد. خداوند به او گفت که به بابل برود، راه ها را به او نشان داد و در کنار او حرکت کرد. سپاهیان بیشمار او همانند سیلاب با اسلحه پیش رفتند. خداوند او را بدون نبرد وارد بابل شهر خیش کرد، بابل از خسارت محفوظ ماند. نبونید شاه کافر به او تحویل داده شد، تمام مردم بابل، تمام کشور سومر و اکد، بزرگان و حکام در برابر او سر فرود آوردند، پاهایش را در آغوش گرفتند و با وفاداری به سلطنت او درود گفتند. خداوندی که زندگی را به مردگان باز می‌گرداند، ما از ویرانی شد و بسیار شادمان بود. آنگاه کوروش در اعلامیه مشهور خود که گونه مبارز طلبی با قدرت سیاسی شرق است می گوید من کوروش هستم، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار منطقه، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه آنشان نوه کوروش، شاه بزرگ، شاه آنشان نواده چیشپیش، شاه بزرگ، شاه آنشان، شاخه جاوید سلطنت که بعل و نبو سلطنت او را در قلب خود دارند در آغاز زمستان 539 وضع سیاسی بابل همچنان مبهم بود البته روحانیان مقامات بلند پایه، مردم و تبعیدیان به اقتدار کوروش گردن نهاده و به او پیوسته بودند نسیمی از شادمانی در سراسر شهر و کشور میوزید با این حال بسیاری می دانستند که از دست رفتن استقلال سیاسی بابل عواقب سنگینی دارد. تیه اشغالهای پیاپی که شهر بزرگ در گذشته تحمل کرده بود، قدرت حاکم به هر حال متکی بر سنت آشوری بابلی بود. نخستین بار بود که شاهی بیگانه با این سنت بر شهر مردوک حاکم شده بود. همراهان کوروش چندان احساس قرابتی با کلدانیان سامیتبار نداشتند حتی اگر بپذیریم ایلامیان که بر پارس ها نیز تأثیر گذاشته بودند دارای روح بابلی بودند مدتی پس از رسیدن کروش نبونید هواداران خود را حفظ کرد آیا برای مبارزه با نفوذ کسانی که رویای استقرار مجدد نبونید را در سر می‌پروراندند، کوروش فرمان داد اعضای روحانیت مردوک رویدادنامه‌ای خاص زندگی نبونید بنویسند و در آن به ذکر گناهان و جنایاتی بپردازند که او نسبت به تکالیف مذهبی خود مرتکب شده بود؟ در همین زمستان بود که یک شخصیت مهم یعنی همسر نبونید و مادر بلشسر و دختر نبو کدنسر ملک نیتوکریس در بابل درگذشت. اندوهی که همه مردم در دوره سوگواری از خود نشان دادند، نمایانگر آسی پذیری در شهری بود که به آسانی فت شده و اطاعت آن شاید ظاهری بود. با این حال، کوروش امتیاز مهمی کسب کرده بود. او بنا به دست خدای مردوک را لمس کرده بود و راهی را در پیش گرفته بود که او نشان داده بود چه نشانه دوستی دیگری بالاتر از این میشد به بابلیان اهدا کرد کوروش تصمیم گرفت پسرش کمبوجیه را شاه بابل کند اما او نمیتوانست این انتصاب را تحمیل نماید بهتر بود شاهزاده جوان به نوبه خود عمل قاطعی انجام دهد که سلطنتش را بر این شهر هزار چهره اصطوار گرداند. لازم بود که کمبوجیه از اول بهار سرپرستی برگزاری جشنهای سال نو را بر عهده گیرد و طی آن پیوند صمیمی و نزدیک قدرت سلطنتی و اعتقادات بابلیان را نشان دهد و به نام کورش پدر خود وفاداری خیش را به تمدن بابل ثابت کند. آین گرامی داشت سال نو، آکیتو، در واقع آسی پذیری موقعیت انسان را منعکس می کرد و پاسخگوی نگرانی های ناشی از سلطه آشوب و پایان جهان بود که مردم سومر و اکد به آن اعتقاد داشتند. جشن باروری فرصتی بود برای تجدید پیمان با زمین به برکت تأثیرات آب و آفتاب که انسانها را تغذیه می کرد. وقتی با اعلام بهار نخستین نشانها تایید می کردند که دور طبیعت از سر گرفته شده است، انسانها این خبر را با شادمانی جشن می گرفتند. حراس از فقدان خوراک از میان می رفت و انسانها به خدایانی که اجازه داده بودند، این معجزه فصلی تکرار شود، خوش آمد می گفتند. آکیتو، مردم بین و را از شر نیروهای مرموزی که جهان را اداره می کردند، حفظ می کرد. آنگاه نه طوفانی می نه دنیا به آخر می رسید. دیگر نظم جهان به خطر نمی افتاد. برای یک سال دیگر بشریت از بقای خود مطمئن می شد. این تهدید به انهدام نهایی که در ازهان حک شده بود، باید از بین می رفت. بدین منظور لازم بود اشتباهات پاک و گناهان بخشوده شود. همه چیز باید پاک میشد و بشریت همه چیز را از صفر شروع می کرد. انسان با بازیافتن پاکی اصیل خود می توانست مطمئن باشد که حد اکثر یک سال دیگر در شمار زندگان خواهد بود. آنگاه خدای نبو که مقر او در بورسیپا بود با احترام به بابل آورده میشد تا در آنجا با عنوان خدا کاتب با در دست گرفتن کتاب زندگی فهرست برگزیدگان را اعلام کند در سال نو سرنوشت ها اعلام میشد و کسی که باید زندگی میکرد زنده میماند سرانجام اینکه اتحاد دیگری در این روز جشن مورد تأکید قرار میگرفت اتحادی که شاه را به خدایان پیوند میداد. در آن روز شاه دست خدای مردوک را که ارباب سرنوشت بود لمس می کرد به دین ترتیب کسی که بر آینده سیاسی اتباعش حکومت می کرد و کسی که بنیادگذار هر گونه مشروعیت بود در خوشبختی انسانها سهم داشت اما نباید اشتباه کرد، پیمان دو طرف برابر نبود حکومت یک انسان بر انسانهای دیگر فقط وقتی مشروعیت می‌یافت که خدا چنین میخواست. بدین گونه در بابل اعلام دودمان شاهان با این کلمات بسیار پر پرمعنا بیان میشد. سلطنت از بالا سرچشمه می‌گیرد. این مردوک است که شاهان را برمیگزیند این خدای بابل بود که کورش را انتخاب کرد و در جلوی او حرکت میکرد. سرور دروازه متعال آینهای سال نو دوازده روز طول می کشد. کاهن بزرگ پیش از طلوع آفتاب در آبهای فرات خود را تطهیر می کند و در حالی که جامعی کتانی به دارد وارد معبد مردوک می شود. او در نیایش خود بابل را به مسابه تخت خدا و بورسیپا را به منزله کلاه خدا می‌داند و وسعت زمین را با شکم خدا مقایسه می کند. سپس کاهنان دیگر با سرودهای مذهبی و موسیقی مقدس به او ملحق می‌شوند. فردای آن روز، صنعتگران دو تندیس طلایی آراسته به سنگ‌های گرانبها میآورند که یکی مار در دست دارد و دیگری اقرب و آنها را در برابر معبد می‌گذارند. روز بعد، کاهن بزرگ در برابر مردوک شعر آفرینش را می‌خواند. او مراحل پیروزی مردوک بر خاویه یا آشوب و قدرت متعال او را یادآور می‌شود و در عین حال به یادآوری رویدادهای بیادماندنی مرگ و رستاخیز او میپردازد وقتی در آغاز همه چیز بیشکل بود و هنوز نامی نداشت آبهای اولیه با هم درآمیخته بودند دو اصل آب شیرین و آب شور تجلی یافته در آبسو و تیامات نسلهای خدایان از جمله تمامیت بالا و تمامیت پایین را به وجود آوردند از این جفت دستگاه خدایان بابل زاییده شدند به زودی خدایان علیه نیاکان خود دسیسه کردند و آبسو تصمیم گرفت آنها را از میان بردارد اما خدای جوانی به نام اعا موفق شد با نیروی جادو به قلمرو آبسو حمله کند تیامات فریاد انتقام کشید او قولها را زایید و همسر جدیدی به نام کینگو اختیار کرد که الواه سرنوشت را به او داد این بار خدایان ترسیدند و در مقابل خطر فوری نبرد کنان عقب نشستند. در شورای جنگی آنها مردوک یگان خدایی است که نبرد با تیامات یا خاویه خاویرامی پذیرد. خدایان نشانهای قدرت همچون کمان، چنگ، آزرخش، طوفان، دام و هفت باد را در اختیار مردوک قرار میدهند. نبرد در میگیرد. مردوک حمله می کند، تیامات را در دام خود میگیرد باد را به سوی او پرتاب می کند، اینها وارد بدن او می شوند و او را نابود می کنند. خدای فاتح سپاه، تیامات را در حال عقب نشینی اسیر می کند، مردوک حمله می کند و الواه سرنوشت را از کینگو می گیرد و بدین ترتیب خود سرور همه چیز می شود. آنگاه آفرینش سازمان یافته آغاز می شود. مردوک، با تقسیم بدن کاوس یا خاویه به دو قسمت آسمان و زمین را خلق می کند. او سپس جهان فلکی را سامان می دهد. ستاره مردوک جوپیتر ای که از گرفتگی جداست از این پس حرکت ستاره ها را تنظیم می کند. سرانجام انسان برای خدمت به خدایان آفریده می شود، سپس مردوک معبد خود ازاگیل را در بابل می سازد که همچنین به برکت اتمنانکی تبدیل به مقر الهی می شود و از آنجا سرنوشت جهان را تعیین می کند. تا این مرحله از مراسم آکیتو کمبوجی دخالتی ندارد، همه چیز میان کاهن بزرگ و خدای او میگذرد اما روز بعد کاهن یک قربانی کننده را فرا میخواند که سر قوچی را از بدن جدا کند سپس بدن حیوان قربانی شده را به گوشه و کنار معبد میمالند تا بدین وسیل ناپاکی های معبد را به خود جذب کند در آخر کار قوچ قربانی را به داخل رود میاندازند و بدین ترتیب تمام گناهان بابلیان با آب برده می شود حیوان قربانی در رود ناپدید می گردد. سپس نوبت تحقیر شاه است که کمبوجیه بیگمان اطاعت می کند. کاهن بزرگ نشانه های سلطنت را از شاه می او را در مقابل مجسمه مردوک قرار می دهد و به گونه او سیلی می زند گوشهایش را می کشد، او را به زانو در می آورد و بیاناتی منفی مانند آنچه به گناهکاران می گویند، به گوش او می که مانند دعای دفع شیاطین و اجنه است من در برابر خداوند گناهی نکردم نه به شکوه ازاییل چشم دوختم، نه آینها را فراموش کردم. کاهن بزرگ پس از آسوده خاطر ساختن شاه، نشانه سلطنت را به او باز می‌گرداند و دوباره به او سیلی می زند. متن می‌گوید او به گونه شاه سیلی خواهد زد. اگر از چشمان او عشق جاری شود، مردوک رازی است. در غیر این صورت، مردوک خشمگین می شود. دشمن به سوی بابل حرکت خواهد کرد و آن را تسخیر خواهد نمود آنگاه دوباره به سوی مردوک باز می گردند مرگ و رستاخیز او گرامی داشته می شود قبل از اینکه فاتح کاوس سرور بزرگ و نازم گیتی شناخته شود سپس سر از تن دو تندیس زرین جدا می کنند و آنها را در رود می اندازند فردای آن روز صفه طولانی راه بابل را ترک می گوید. تمام خدایان به نزد شاه آورده میشوند تا هر یک را در محل خود جای دهد آنگاه شاه دست مردوک را میگیرد و اکنون هنگام عزیمت راهپیمایان مقدس به خارج از دیوارهاست خارج شو ای خداوند شاه در انتظار توست او خداوند را از بابل خارج میکند پهلو به پهلو خدمتگزاران ایشتار بابل نمی نوازند تمام بابل فریاد شادی می کشد. صفه طویل مسیر راهپیمایی را در پیش می گیرد و از طریق دروازه ایشتار بابل را ترک می کند. در ساحل فرات خدایان را از روی عرابه هایشان به روی زورقها انتقال میدهند در حالی که از عظیمت آنها متاسف هستند. اکنون روز یازدهم مراسم است و خدایان باز راه بابل را در پیش می گیرند و در آنجا مردوک با این سخنان استقبال می شود. خداوندا، وقتی تو به مسکن خود باز می گردی مسکن به تو می گوید آرامش بر تو باده خداوند. بابل شهر شادی تو دیگر خالی نخواهد ماند. سرانجام در روز دوازدهم خدای نبو از پدرش جدا می شود و به بورسیپا مقر خود عظیمت می کند. جشنها به پایان رسیدند. بابلیان اطمینان خاطر یافتهاند اند که آینده برای آنها مساعد است. کمبوجیه با این اعمال مذهبی گام سیاسی بلندی برداشت. او از این پس شاه بابل است و کوروش می تواند خود را شاه شاهان اعلام کند. کوروش، با صدها عمل مذهبی اطاعت خود از مذهب بابلیان را نشان داده است. او وفاداری خود را به مردوک نشان داده و بالاتر از آن خود را برگزیده بزرگترین خدایان معرفی کرده است. او با این کار روحانیت و مردم را طرفدار خود و پسرش کرده است. گروش در استوانه ای پرمعنایی پرمعنای هواداری خود از خدای بابل بیان کرده است. مردوک خدای بزرگ قلب ملت باهوش بابل را از آن من کرد در حالی که هر روز در پی نیایش او بودم کوروش به هیچ وجه به مذهب آشوری بابلی نگرویده بود او به نام سربازان پارسی خود به طور کلی نهادهای کلدانی از جمله مذهب ایشان را پذیرفته بود او در راه خدایانی قربانی کرده بود که سلطنت را به یک مرد تفویض کردند، او خدایان را از اجبار به اینکه شهرهای خود را ترک کنند آزاد کرده بود، مذهب را به خلوص اسیل آن بازگردانده بود و در مقابل مقام سلطنتی را به دست آورده بود. اما کوروش خودش خدمتگذار و معتقد به اهورا مزدا خدای نور و راستی بود که نه به بطها نیاز داشت نه به معابد و قدرت حیاتی او سراسر جهان را دربر می گرفت. شهریار پارس فقط مردوک و دستگاه خدایان بابل را انصری از یک نظام سیاسی دینی می دانست که باید به الزامهای آن احترام بگذارد. اعتقادات خود او مسئله شخصی بودند. بدین گونه این اندیشه را اعلام می کرد که دین و دولت دو عرصه متفاوت و جدایی پذیر هستند. البته در بابل نه دین بدون دولت معنایی داشت و نه دولت بدون دین. ایمان به مردوک یعنی آشوری بابلی بودن و آشوری بابلی بودن یعنی اعتقاد به مردوک. به هر حال، کوروش در سرزمین میان دجله و فرات به دنیا نیامده بود، اما در جهان بینی خود شاهنشاه یک امپراتوری جهانی بود. او نمی توانست به اعتقاد و کیش خاصی تظاهر کند، بلکه برعکس باید بر مذاهب همه اقوام و مللی حاکم باشد که سرنوشت خود را به دست او سپرده بودند. او قصد نداشت آین اهورا را تحمیل کند زیرا میدانست که خدای بزرگ آریایی ها درست به علت خصلت مجرد خود حاکم سراسر عالم است. این احترامی که کورش نسبت به خدایان دیگر قائل می شد آزادی لازم را برای گسترش قدرت در اختیار او قرار میداد. با وجود این در بابل همه چیز به روال عادی خود جریان داشت. شاه کمبوجیه فرمان روایی می کرد. تجارت ادامه داشت بانکداران و صرافان و سوداگرانی چون خانواده اگیبی همچنان به تجارت خود ادامه میدادند. البته انتظار آمدن کورش حالت حیجان و نوعی امید، به در یهودیان ایجاد کرده بود که شایعه ای آزادی قریب خود را بر سر زبانها انداخته بودند و البته مالکان بزرگ و کارمندان بلند پای نگران بودند که مبادا اصلاحات مالی و اداری امتیازات آنها را مورد تهدید قرار دهد. اما پس از تایید و تبرک پادشاهی این شاه جدید یعنی کمبوجیه پسر شاه به نظر می رسید که همه چیز سامان یافته است. به نظر کوروش، مجموع جامعه بابلی پیچیده تر و آسیب پذیرتر از آن بود که در شرایط کنونی کمترین اصلاحات ساختاری در آن انجام گیرد. وقتی فاتح بابل، گوبریاس کلدانی کمی پس از فتح بدون خونریزی شهر بزرگ درگذشت، گذشت، کوروش اداره کشور را به یک بابلی اسیل زاده به نام نبو آهوبولیت سپرد که در زمان نبونید نیز همین سمت را داشت. در مورد آخرین شاه بابل مستقل یعنی نبونید نیز کوروش تصمیم گرفت او را به کرمان تبعید کند. منطقهی که از پایتخت بسیار دور بود. چون او این را کرده بود که پایتخت خود را رها کند و به کویر عربی آرامی پناه ببرد و بهترین سالهای عمر خود را در آنجا سپری کند. پس نبونید مدتی در ایالت کرمان زندگی کرد که در جنوب پارس واقع شده است، و بیابانهای سخت و کوه های سعب العبور آن را از پارس جدا می کند. نبونید متحد سابق کوروش و پرستنده خدای ماه در سال 538 در همین ایالت درگذشت. شاه بزرگ که به خاندان سلطنتی بابل احترام می‌گذاشت دستور داد ازای عمومی اعلام شود. بنابراین در تابستان همین سال کوروش با خیال آسوده به پایتخت خود اکباتان، بازگشت. او اکنون در رأس بزرگترین امپراتوری که تا کنون مشرق زمین به خود دیده بود قرار داشت و احساس می کرد شالوده سازمانی استوار چه از لحاظ سیاسی و چه اداری و مذهبی را پیریزی کرده است که می تواند در برابر جوشش اندیشه ها و استرابی که ممکن بود ملل زیر اقتدار او را ناراحت سازد مقاومت کند. از این پس، پادشاه حقامنشی بر شهر اسرارآمیز بابل سلطنت می کرد که نامش به معنای دروازه برین، دروازه الهی یعنی دروازهی بود که از آن طریق خدایان به جهان زمینی راه می آفدند. فرمان روایی بر دروازه متعال برای شاه ایران به معنای حاکمیت بر تمام جهان بود.